کتاب دارول اثر نیما شهسواری بخش اول. سخنی با شما. به نام آزادی یگان منجی جانداران. بر خود وظیفه میدانم تا در سرآغاز کتاب هایم چنین نگاشته ای به چشم بخورد و همگان را از این درخواست با خبر سازم. نیما شهرساری،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 و تنها خواستم از ناشران کتب نش ندادن این نگاشته ها بر کاغذ است حال چه از روی سوچوی و چه برای ترویج و تلارسانی امروز می توان با گیری از فناوری در برابر مرگ و تخریب درختان این جانداران والایی ای سادگی کرد پس اگر شما خود را مبلغ افکار آزادگی میدانید که بیشک بیمدد از این نگاشته نیست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 در اتاقی سپید رنگ که با نور مهتابی روشن است، تاهر آرام بر روی تختش نشسته است. اتاق خالی از هر گونه اشیا تنها همین تخت را در خود جای داده و میزی که به همراه تخت است و در صورت نیاز روی تخت را احاطه می کند. فایل کشویی سه طبقه ای نیز در کنار تخت قرار دارد. جنس تخت، فایل و میز از سیل است و بر سرمای فضا می افصاید.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 نور آفتاب و خورشید دلش هوای همه چیز را داشت به همه جا نگاه میکرد مدام چشمانش را به این سو سوان سو میچرخاند و خود را در جهان رهایی تجسم میکرد آنقدر نگاه کرد تا چشمانش به دو پرنده افتاد که بر روی چمنهای سبز رنگ جس و خیز میکردند هر از چند گاهی نوکی به هم میزدند بالهای هم را تمیز میکردند و بعد از چندی به هم چش می دوختند در حالی که تاهره به آنها چشم دوخته بود به او چشم دوختند و پرواز کردند. نگاهشان در هم تنیده شده بود و طاهره به رقص و پروازشان در آسمان چشم دوخت که صدای سوت کرکننده ای او را به خدا ورد چشمان از حدقه در آمده ی مردی را پشت محفظه حس کرد آری او حیدر بود همان هیدر دیوانه با آن قد کوتاه و چشمان از حدقه بیرون زده که به واسطه عینکش شینگونه زود شناسایی میشد او همواره در کمین بود و حال طعمه تازه خود را یافته بود و باز با همان سوت همیشگیش همه را از وجود بحرانی تازه باخبر کرد طاهر بر سر جای خود خشک مانده بود هیچ حرکتی نمیکرد و به چشمان هیدر چشم دوخته بود جایان پرواز و رقص پرندگان، جایان نسیم خوش و مطبوع، حال باز همان نگاه های دیوانوار حیدر بود که او را به خود میبل چندی نگذشت که دوتن از زیر بغل او گرفتند و او را کشان کشان به بیرون اتاق بردند، تاهره چشمانش را بست تا چیزی نبیند، اما دیگران دیگر همراهان او را دیدند همه دیدند که او را کشانکشان کشان میبرند و همه دانستند که سرنوشت شومی در انتظار اوست حداقل هر کسی در این سرا به حس در آمده بود برای یک بار هم که شده از گزند زبان هیدر چشیده بود فوش‌های جنسی او را می‌شناخت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 از همین رو بود که طاهره چشمانش را بست و خود را وارد دیگر به دستان تقدیر سپرد چند گامی که طاهره از سالن و از میان همراهان دور نشده بود هیدر وارد شد رو به جماعتی که همه در بحت و حیرت بیرون اتاقهایشان بودند کرد و گفت مردم ای مردم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 بهترین روزگار را ما به لطف حضرت والا برای شما ساخته ایم پس به سرنوشت خود پشت پا نزنید و فریب به شورش طلبان و دیوانگان را نخورید چند روز پیش پیشگان سوراخ را بیرون ساختمان جستم میتوانستم طاهره را کت بسته به های شکنجه ببرم اما من میگونه نبودم و شما هم میدانید من میان مردمان و شورش طلبان تفاوت قائلم شما تصدیق حرفهای من هستید پس گذاشتم تا در حین ارتکاب جرم او را دستگیر کنم باز هم میگویم و تکرار میکنم فری به اختشاش طلبان را نخورید و به سرنوشت خوش خود پشت پا نزنید بعد آرام رو به جماعتی که بخت زده بود کرد و یکایک آنان را از نظر گذراند با چشم و ابرو به آنان فهماند که حال زمان فریاد است و آنان که بیرمق بودند به آرامی فریاد زدند جاوید حضرت والا هیدر محکم فریاد زد و بلند گفت جاوید حضرت والا او با این فریاد در انتظار فریاد دوباره آنان بود اما مجانین بی حال و رمق به درون اتاقهای خود ره پار شدند و هیدر با صدای بلند فریاد زد باید بدانید که تخطی از غوانین سرانجام دهشتناکی خواهد داشت تا چندی دیگر از اوضاع تاهره هم با خبر خواهید شد اینها را گفت و از سالن بیرون رفت دارالمجانین مجانین فضای مخوف و سردی داشت سخف های بلند، سالن‌های بزرگ، دالان های بسیار، اتاق‌های انفرادی و شکنجه، اتاق‌های بازیابی و اناوین بیشمار دیگر این طبقه همکف دارالمجانین بود و اما طبقه فوقانی که محل اسکان رؤسا و معاونین، دکترها و پرستارها و به کلی تمام کارکنان خدوم دارول بود. بخش های طبقه همکف متشکل شده بود از بخشی برای بانوپان دربند، آقایان دربند، دیوانگان خطرناک و بخشی هم برای تازهواردها. این بخش از همان ابتدا که مجانین به یاد داشتند این گونه تعریف شده بود، و آنها چیز دیگری بجز این را به خاطر نمی آوردند در مجموع مجانین چیز زیادی از گذشته به یاد نداشته و همواره خاطرات جس و گورخشته ای به خاطرشان می آمد. از اتفاقات در گذشته هیچگاه کسی در میان آنان نبود که با سراحت از هر چه در گذشته گذشته است مطلع باشد خاطرات در هم و مخشوش از روزگاران پیشتر بود بیشتر مجانین باور داشتند که در همین سراز زاده شده اند و همواره در میان همین دیوارهای سپید رنگ نفس کشیدند. چیزی از بیرون، خیابانها، آزادی، هوای تازه در ذهن آنان تدایی نمیشد و هرچه بود همین سخفهای بلند، دیوارهای سپید، محتابی و عدم وجود نور خورشید بود. ذهنشان مدام تحلیل می رفت. هر روز از دیربازان کمتر به خاطر می آوردند و بیشتر مغزشان هم از اتفاقات حال حاضر جهانشان می شد اما همه به اتفاق به یاد داشتند روزهای پیشتر از انقلاب را آریانان به یاد داشتند انقلاب کبیر را آنها از حضرت والا فرشادتهایش می دانستند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 آرمانی بزرگ برای مجانین که با شادت‌های های بیشمارانی به بار نشست و حکومت را به دست اینان رساند امروز در نکه حرم قدرت داوود قرار داشت او هم یکی از انقلابی های دیروز بود یکی از آنها که رشادت کرد و به انفرادی افتاد شکای الکتریکی هم نتوانه سورا از پای بی و حالا در نوک پیکان قدرت بر تخت نشسته بود و حاکمیت مردم را بر مردم نمایندگی می کرد اما همواره زیر سایه حضرت والا قرار داشت حضرت والا حتی بعد از مرگ هم هنوز نخستین چهره در میان انقلابیان بود او یک کتاز این قدرت استوره آنان و صاحب همه کمالات بود همه به خاطر می‌آوردند که چگونه رهبری اعتراضات را به اکده گرفت و از جماعت خاموشان روزها یک گروه در صحنه ساخت تا حکومت پیشینیان را چه پر از فساد، جور و ستنبود را به کنار زدند آنان را از میان دارلمجانین فراری دادند و حضرت والا را به تخت نشاندند کسی از گذشته و دورده خبری در سر نداشت تنها به یاد می‌آوردند. که در کمی دور دست ها حکومتی بر آنان حک برمایی میکرد به رهبری مهدی که رئیس روعصاب بود. او مردی خودکامه بر تخت قدرت بود که هر عمل مجانین را تحت سلطه خود داشت. خاطرات از آن روزگار هم به درستی در نبود و مدام چیزهای زد و نقیز بسیار به یاد مجانین میافتاد.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 و پایه‌های حکومت ظلم را به پایین کشیدند از میان بردند و از آن روزها هیچ به یاد نماند جزنامی نامی منحوس که لغلقه دهان داوود، حیدر و دیگران برای به یاد آوردن حکومت پر ظلم پیشین بود حکومت مجانین بر مجانین درست به خاطر نمی‌آوردند که این ابتدایی ترین شعار آنان بود و یا حکومت مردم بر مردم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 و کسی از واقع ماجرا با خبر نبود مدام گذشته دیربازان به گوش آنها خانده می شود. مدام برایشان از دورترها میگفتند، اما روایتی که حضرت والا و داوود تر کرده بودند بیشتر به بیانشان میپیچید. گاه مجانین بر این مدعاها تشکیک می کردند اما قدرت نفک آن را نداشتند که چیزی برای در میانشان نبود، به جز ذهنهای مریضی که هر بار با خوردن قرص تازه‌ای بیشتر به انفعال فرو می‌رفت و در خود می ماند. هیدر معمور نگهبانی از امنیت عمومی بود، با قدی چشمانی از هدقه بیرون زده که عینکی تهستکانیان را پوشانده بود. لقب او در میان مجانین هیدر دیوانه بود، زیرا همه از او خاطرات دیوانه‌واری به یاد داشتند رفتارهای وحشیانه، ضرب و شتم و اعصابی متشنج، گهگاه تشنج می‌کرد و بر زمین می‌افتاد و پس از آن به هر که در برابرش بود هجوم می برد. همه را از باد فو می می‌کرد و چند لگد و مشتی هم می‌پراند. از این رو بود که از پیش از انقلاب او را در دیوانه خطاب می‌کردند. و بعد از این دگرگونی و بر تخت امنیت نشستن بیشتر این واجه دیوانه بر او و حیبتش نشست داوود با پیشانی و صورتی کشیده که ریشی بلند آن را پوشانده بود رئیس رؤسا بود یعنی دقیقا بر جایگاهی نشسته بود که کمی پیشترها مهدی آن تک زده و بعد از دگرگونی جایگاه حضرت والا شده بود و پس از مرگ دلخراش او و این درد جانکاه عمومی برای همه مردم. چیزی که مدام به همه از تازه واردان تا پیش گفته می به داوود رسید داوود حال پادشاه جماعت مجانین بود همواره در اتاقش در طبقه فوقانی دارال مجانین می نشست و از همه اخبار مطلع می شد و پس از آن دستورات لازم را به زیردستان منتقل می کرد برای مثال تاهره وقتی هیدر در حیات دارالمجانین در حال گشت زدن بود برای اولین بار با سوراخی در دیوار مواجه شد بلافاصله موضوع را با داوود درمیان گذاشت و او دستور داد تا در حین ارتکاب جرم کسی را دستگیر کند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 این خط قرمزی در برابر باورهای او بود او میدانست که به بیرون نگاه کردن به معنای سپردن به آرمانهای تازه است و مدام به همه زیر دستان اعلام می کرد که اینها اناسور بیگانه و از آن دشمنند اینان می خواهند با ترویج افکار تازه نظم ساخته ما را برهم زنند اینگونه بود که به هیدر امر کرد تا پاهره را چند روز در انفرادی نگه دارد مدام باز رویش کند هر ای که بلده است به کار ببندد تا عوامل خارجی و به خصوص دستیابی او به مسین مشخص شود. مسین قرصی بود که حضرت والا از دیرباز از آن به عنوان دشمن نام برده بود او می گفت این همان است که مردم را به اشرار بدل می کند آنها را با دنیای تازه آشنا می که دیگر قائل به هیچ نظمی نخواهند بود فرای داوود و هیدر و حضرت والا جواد هم یکی دیگر از اعضای حکومت دارول بود او به عنوان معاون به حساب می آمد. در کنار او حسن هم نقش مشاور را ایفا می کرد اینها همه کسانی بودند که در انقلاب کبیر نقش های به بازی کرده بودند آنها همه در آن روزگاران بر ضد استبداد حاکم شورش کردند و حکومت مجانین بر مجانین را پای ریزی کردند هر که از آن دوران بود را بیرون کردند به جز پرستاری به اسم محسومه و دکتر روانپزشکی به اسم ناصر همه را از دیواره قدرت بیرون کردند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 و بیشتر در کنارهای نشسته بود هرچند که اتاقش در طبقه فوقانی دارالمجانین و در میان حکومتگران بود اما نقش عمده در تحولات نداشت و بیشتر به عنوان مشاور در بعضی عناوین از او استفاده میشد و گهگاه راهکارهایی در اختیار داوود و دیگر حاکمان قرار میداد در کنار او اسخرنامی هم وجود داشت که خیلی علاقه به حکومت کردن نداشت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 به جز این حاکمان تعداد زیادی مجنون سرتاسر سر امارت دارالمجانین را پر کرده بودند. هر کدام در مخشهای مربوط به خود زندگی میکردند و در حال حاضر چند سباهی بود که همه عمر و روزگار را در میان همین امارت می گذراندند. دیگر نه خبری از هواخوری بود، نه حیات را می گیدند و نه از اتاقها می توانستند بیرون را نظاره کنند. آنال محکوم به زندگی در میان همین امارت سفید با سقف‌های بلند و فضای سرد بودند و هیچ روزنهی به بیرون نداشتند. هر سال در روزهایی مشخص مراسمی خاص در دار برگزار می یادبود یاد بود روزهای انقلاب و شادتها که با فریاد جاوید حضرت والا آغاز می شود. و گهگاه جمعی فریاد جاوید داوود بزرگ هم سر می دادند که بیشتر در انتهای مراسم و در میان جمع اندکی بود هرچند که مجانین باور داشتند هر سال بر تعداد و در این حال بر زمان این فریادها افزوده افسوده می شود جز این مراسم با شکوه تجدید میسا با آرمان های انقلاب مراسم دیگری نیز برگزار می شود.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 بعضی از مجانین همان روز را خوب به خاطر داشتند اما برخی چیزی به خاطر نمی آوردند جز حرفهای انقلابیون از آن روز که همه دارول مجانین و کاس برای ازاداری بیرون رفت بر سر و صورت کوفت و جنازه با برکت او را در میان حیات دارول مجانین به خاک سپرد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 هفته ای از شکوه و اختدار از ایستادگی و مردانگی از مقاومت و دفاع بعد از به تصخیر درآوردن قدرت و تغییر حکومت و ساختارها در دارالمجانین از طرف نیروهای بیگانه برای بازپسگیری قدرت و حکومت تلاشهایی شد آنها به صحن دارالمجانین حمله آوردند تا نیروی انقلابیون را از بین ببرند از هر سو هجوم آورده شد ریختند آتش زدند نیروهای بسیاری به سحن آمدند اما این تازه انقلابیون بودند که با نیروی کم و قدرت ایمان در برابر دشمنان ایستادگی کردند آنان بودند که با سوزنها و سرنگها با چوبهای دستی و قیچی و هرچه در فضای دارول مجانی بود در برابر قوای بیگانه ایستادند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 خونشان سنگ فرش حیات دارول شد و با عزت در برابر آنان شربت شهادت را نوشیدند حضرت والا چه نوتخای آتشینی که نمی کرد. چگونه همه را به ایستادگی و مقاومت رهبری می و چگونه در برابر زورگویان ایستاد آن روزها و آن جنگ وحشتناک که از دفاع شروع و به حمله ادامه پیدا کرد حضرت والا از گسترش انقلاب گفت از بیرون رفتن از مرزهای دارالمجانین ها راند و قرار بر این بود که انقلابیون بعد از راندن دشمنان از خاک دارالمجانین به دیگر دارالمجانین ها حمله کنند و این انقلاب کبیر را به دیگر نقاط گسترش دهند اما نیروی قوای دشمن بسیار زیاد بود و این مهم را از میان برد بعد از بیرون راندن دشمنان که دو روز به طول انجامید هرچه انقلابیون کردند تا از دیوارهای دارالمجانین عبور کنند راه به جایی نداشت با سوزنهای در دست، قیچیه برکمر و چوب دستی در پشت از دیوارها بالا رفتند تا انقلاب را گسترش دهند اما قوای دشمن با گلوله های سروی در برابرشان ایستاده بود و همه را به کام مرگ و شهادت فرستاد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 و در عین حال تعداد بیشماری از مجانین که شهید نام داشتند و در حیات دارالمجانین مجانین به خاک سپرده شدند برایشان هر بار مراسم و های بسیار گرفته شد و نام آنان لغلقه دهان تمام انقلابیون شد هرکس خود را به خیشاوندی با آنان و در کنار آنان بودن همراه و یار و یاور آنان بودند تمثیل کرد و با این اوصاف به خویشتن و اعتبارش افسود و نام شهدا بزرگترین پشتوانه انقلاب کبیر شد نام شهدا در کنار حضرت والا بزرگترین و والاترین قسمها و ارزشها برای مجانین انقلابیون و دارالمجانین لقب گرفت در میان برخی از مجانین چنین شایع بود که دلیل از میان بردن هواخوری و استفاده از حیات همین به خاک سپردن شهدا در میان حیات دارالمجانین بوده است آنها باور داشتند که بعد از پایان جنگ دیگر کسی حق استفاده از حیات را نداشت حکومت و در رس آن حضرت والا فرمود این حیات آرامگاه شهدای پاک دارالمجانین است و ما با قدوممان پیچره با ارزش آنان در خاک را مورد آزار قرار می دهیم از این رو قانونی وضع کرد و در آن به سراحت اعلام داشت که کسی حق استفاده و پاگذاشتن در حیات را ندارد. و این گونه شد که دیگر کسی نتوانست در ساعاتی معین در روز به حیات برود و از هوای آزاد استفاده کند. در آن قانون چنین آمده بود که مگر در شرایط اضطراری و برای اتفاقات مهم دیگر کسی حق آمدن به حیات را ندارد.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 اما هم در میان مجانین افرادی بودند که باور داشتند آن بخش نخستین یعنی استفاده نکردن از حیات و ساعات هواخوری در دستور حضرت والا و به دلیل شهدا بود و بخش دوم یعنی محرومون کردن پنجره ها به فرمان داوود و برای تثبیت قدرت و دور کردن مجانین از هر ایده و فکر در مجموع که نمیشد به طور قط چیزی را ازان کرد و به آن باور داشت زیرا حافظه مجانین هر روز در حال تحلیل رفتن بود و بوهوکرنای حکومتیان همان انقلابیون گذشته آنقدر بلند بود که گهگاه هیچ برای تفکر به جای نمیگذاشت. بیشتر مجانین باور داشتند در دوران پیشین و قبل از انقلاب کبیر زمانی که مهدی حاکم برانان بود و به نوعی از قدرتهای بیگانه قدرت گرفته بود و حکومت مردم بر مردم را نمایندگی نمی‌کرد. مجانین حق هواخوری داشتند هر روز در ساعتی معین به حیات می آبدند. در سندلی های شده می نشستند. پرستاران برایشان چای داغ می و آنان از هوا و چای داغ لذت می بردند جزین باور داشتند که همیشه پنجره ها باز بود مجانین به پشت پنجره ها می نشستند و به بیرون نظاره می کردند. هیچگاه کیفری سخت و یا ممنوعیتی برای دیدن لحاظ نمیشد، اما در کنار اینها همه باور داشتند که در زمان قدرت داشتن مهدی بسیاری برای کوچکترین اعتراض مثلا به غذا یا به داروها یا برای ساعات بیشتر هواخوری و خلاصه هر دلیلی به اتاقهای بازیابی و شکنجه سپرده میشدند. آنها را با شوک الکتریکی سر عقل می‌آوردند به تنشان لباس مجانین می‌کردند زنجیر به دست و پایشان می بستند و ساعتها در اتاقی به تنهایی رهایشان می کردند. و این گونه شد که حضرت والایی که کسی از نام پیشینش مطلع نبود و برای شمایلی ساخته شده بود که گویی از نخص با چنین نامی مطرح بوده است آمد و صحبت از انسانیت کرد حرفهایی از حقوق مجانین گفت و دیوانه ها را یک رنگ و یک صدا ساخت تا بشورند و حکومت مهدی را واژگون کنند. در دوران پیشترها همان روزها حاک که محتی حاکم دارالمجانین بود ایدهی به نام حکومت مجانین بر مجانین مطرح شد که دایی دارش حضرت والا بود حضرت والا اناسر بسیاری از دل مجانین را با همین ایده به خود جذب کرد و این گونه گروه انقلابی گرد هم در آمدند اسخر، محمد، داود، حسن، جواد، محمد داوود، حسن جواد و خیلی از شهدایی که بعد از جنگ هفت روزه از دنیا رفتند دور حضرت والا را گرفتند و اینگونه این, این ها جذب نیرو از دل مجانین کردند و در حرکتی رعدآسا با هرچه در توان بود آتش دادن شورش اختشاش پرستاران را بیهوش کردند و سوزن به جان معمورین فرو بردن همه را بیرون کردند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 و همواره از نظر دارو و درمان، قضا و دیگر مایحتاج پشتیبانی شوند و اینگونه هم شد و دنیای تازه مجانین شکل گرفت اما با توجه به قراعتهای بیشمار مجانین روزگار آنان در حال دگرگونی بود هواخوری و استفاده از حیات از میان رفت و قدغن شد پنجره ها را محرمون کردند و دیدن فضای بیرون جور محسوب شد حکومت بیرون و خارجیان همواره دشمن غلمداد شدند و گونه ای دارو به نام مسین یکی از راه های دشمن محسوب شد اما چرخه این اتفاقات به همین سرعت شکل نگرفت و با هر اتفاق هزاری اتفاق دیگر همراه کرد یکی از مساطق خطرناک در برابر انقلابیون دارالمجانینی در دور دست بود دارالمجانینی که محل آشوب و درگیری های بیشمار به حساب می آمد. کسی از آن خبر خاصی نداشت و تا حال آن را ندیده بود. چرا که قطعه مسلم هیچ کدام از مجانین توان خارج شدن از اینجا را نداشتند و هر مجنون ای که به دارال مجانین هیچ گذشته ای را به خاطر نمی آبرد. هیچ از دنیای بیرون نمی دانست و تمام جهانش از همان بد و ورودش به دارال مجانین شکل می گرفت. اما انقلابیون به واسطه ارتباطات بیشماری که خودشان همواره با بیرون دارالمجانین مطرح میکردند، دارند از دارالمجانینی در دور دست‌ها دارالمجانین سرخ میگفتند. جایی که سرنوشتی شبیه به همین امارت آنان را داشت اما با این تفاوت که به واسطه استفاده از مسین و نفوذ عوامل بیگانه و دشمن برانان آنان دیدن فضای بیرون و جولان دادن در هواخوری و حیات به مجانین شورش طلبی بدل شدند که با اختشاش هر آنچه به دست آورده و نظم را از میان بردند و سر به دارال مجانین سرخ بدل شدند که صحبت بسیار پیرامونشان بود از تجاوزات دست جمعی تا خوردن جان دیگر انسان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 عواملی از جمله داروی مستین عوامل بیگانه و خارجی نفوذ دشمن، آزادی در فضای باز چشم دوختن به فضای بیرونی فکر کردن به بیرون از دارول مجانین دارول مجانین سرخ بدترین کابوس ها بود و هر روز نقل تازهی از آن به گوش می رسید مثلا مردی که در آن دارول مجانین سرخ زنی را بعد از تجاوز زنده زنده خورد و وحشتی که مجانین را آرام و بیتحرک به گوشهی وامیگذاشت گذاشت تا آرام به سوی پرستار و ناصر دکتر دارول پیش روند و خود تقاضای تسلاپام بیشتری کنند تسلاپام داروی مورد علاقه حضرت والا بود از لیست داروهای بسیاری که در دوران مهدی و حکومت اقتدارگرایش در دارول مصرف میشد آن را برگزیده بود حضرت والا به تسلاپام علاقه بسیاری داشت هر هرچند که در آن دوران و به واسطه روح خبیث محتی از این دارو به زشتی استفاده می شود و با آن قصد دارند تا مجانین را بی حرکت و منفعل کنند و حتی دستور به تحریم آن را هم صادر کرده بود اما بعد از به قدرت رسیدنش باور داشت که بزرگترین عامل برای به نظم در آوردن مجانین همین استفاده مدام از تسلاپام است. داروی جادویی که مجانین را حرف شنو و آرام می همچون مومی بر دست انقلابیون آرام می ماندند به حرفها گوش می دادند. سرها را به نشانه درست بودن سخنان تکان می دادند و از فضای آرام در برابرشان از امنیت به همت انقلابیون استفاده می کردند. ناصر دکتر دارول نیز آرام برایشان از فواید این دارو میگفت که چگونه آرامش را به آنان هدیه می دهد چگونه آنان را از زشتی ها دور می کند چگونه می تواند حافظ آنان در برابر هر خطری باشد آنگاه از فضایر تسلاپان می گفت تا مجانین اقوا شده آرام و را به دهان گذارند و زیر زبان مزه مزهش کنند بازی دوست نداشتند آن را با آب پایین دهند که دوست داشتند این مایه جانبخش را بر دهان نگاه دارند و از مزه حیات بخشش لذت برند تسلاپام فرای تاثیر آرام بخشی که بر مجانین داشت تا حد بسیاری آنان را گوش به فرمان می کرد. به آنان احساس تازه‌ای از فرمان برداری می داد. این را حضرت والا در دوران جنگ کشف کرد آنجایی که برخی از مجانین آسی و یاغی شده بودند. با تجویز ناصر در قزایشان مشت مشت تسلاپام افسودند و اینگونه شد که فردا در جنگ به فرمان حضرت والا همان مجانین یاغی چشمها را بستند و با سوزنهای در دست به برابر گلوله ها رفتند.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 بهناصر هر روز امر کرد تا به تبلیغ ارزش والای تسلاپام در میان مجانین بکوشد آنها را از این ارزش والا باخبر کند و آنان را راغب به استفاده از این قرص کند و هر کس که در دارال مجانین بیشتر طالب این قرص بود ارزش بیشتری می یافت به نوعی انقلابی تر شناخته می شد و دارای اعتبار بیشتری بود فرای اینها یکی دیگر از ارزشهای بزرگ میان انقلابیون که همواره از آن برای مجانین سخن میگفتند وحشت از بیرون و اجتماع آدمیان بود یعنی اجتماعی که مجنون نبودند خیابانهای بیرون این فضا اینها را حضرت والا به کرال نقل کرده بود و به همه مجانین گوشت کرده بود که فضای بیرون این دارال مجانین دشمن مجانین است در آن روزهای پیش از انقلاب که کسی به وضوح به خاطر نمی آورد جماعتی بودند که دم از بیرون رفتن از حصار این دارالمعانی میزدند. اما بونیه آنان در برابر حضرت والا و دیگر انقلابیون بسیار کم بود و حضرت والایی که از همان نخست بزرگترین دشمنها را بیرون رفتن از مرزهای دارالمعانی ترسیم کرد.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 و هر که خلاف آن باوری داشت حرفها را به دل خورد یا با تسلاپام فراموش کرد و یا آرام گرفت و دیگر دم نزد که استدلال های حضرت والا به کرسی نشست. همه فهمیدند که بیرون این مرزها ها جز چیزی انتظار مجانین را نمی کشد و آنها تنها می توانند حکومتی از خودشان را حاکمه خود کنند. و این گونه هم کردند. در تحکیم همین نظریه و باور بود که داوود بعد از به قدرت رسیدن هر دریچه ای را به بیرون از میان بود پنجره ها را محرموم کرد استفاده از هواخوری را یا خود و یا پیشپای بزرگ پیشین از میان برد و اینگونه این باور مستحکمتر و قدرتمندتر بر جای خود زد که بیرون از دارالمجانین مجانین برای مجانین به معنای مرگ و نابودی است. یکی دیگر از دشمنان همان نیروی بیگانه در بیرون مرزهای دارالجنون بود همانها که در اثر ناتوانی گفته همیشگی انقلابیون با آنان قراردادی نوشتند و قدرت آنان را قبول کردند و مسئولیت تامین آنان را به عهده گرفتند تا هیچگاه از این مرزهای مشخص شده بیرون نیایند همینجا در بند بمانند و همواره تامین باشند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 انقلابیون بارها و به کرات اعلام می داشتند که آنها قضا و مایحتاج را قطر چکانی در اختیار دارالمجانین میگذارند تا همیشه مجانین وابسته و نیازمند بمانند آنها را در چنگال ضعف نگاه دارند و از این رو بود که همواره فریاد دشمن خاندن بیگانگان در ازان بود غذای کم داروی کم، درمان کم و مایحتاجی که همیشه در تنگنا به مجانین می رسید تا آنها را ضعیف کند. انقلابیونی که به سند و در میان مجانین می‌آمدند و برای آنان از رشادت و ایستادگی میگفتند. می‌خواندند ما باید ایستادگی کنیم، باید در برابر این ناب ها بی‌هسیم و کمر آنان را به خاک بکوبیم. آه یاد جمله‌های پولادین حضرت والا که بیگانگان هیچ غلطی نتوانند کرد بر دهان آنان خواهیم کوفت و فریادهای دیوانوار مجانین در تصدیق اوامر حضرت والا و مرگ بر دشمن و زنده باد حضرت والا گوش فلک را هم کر می‌کرد از این رو بود که همواره مجانین با تنگناهای بسیار سر و کله می زدند.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 داستانهای بسیار که در میان مجانی نغمی شد. از جنگ و ایستادگی، مقاومت، تا پشتکار و تلاش. مراسم بیشمار در تایید و بزرگداشت جایگاه حضرت والا، انقلاب، جنگ و دفاع مقدس. تمامی سرگرمی ها در همین راستا و با این مزامین بود. اما هر بار رنگ تازه ای باری به شکل نمایش در میآمد و بیشماری مجانین را به دور خود جمع می کرد. گاه داستان میشد و کسی برای دیگران از رو می خاند. گاه شعر بود و گاه ترانه که به آوای یکی از مجانین خانده میشد و دیگران هز می بردند. مصرف بیدریغ تسلاپام در میان مجانین و در عین حال عناوین بیشمار از دشمن و دیگر موضوعها باعث شده بود که مجانین دست به هیچ اختشاش و شورشی نزنند. اما باز هم با این حال اتفاقاتی در گوشه و کنار میافتاد. به عنوان نمونه تاهره و اقدامش برای زیر پا گذاشتن قوانین داوود. از این دست اتفاقات باز هم افتاده بود. حتی گاه کار از این هم فراتر رفته بود مجنونی که از دریچهی به بیرون به حیات گشوده بود و در حالی که به درختی تکه زده بود توسط حیدر دستگیر شد و سرنوشت دهشتناکی داشت او بعد از این اتفاق دیگر نتوانست بر پای خود بیستد و همواره با صندلی چرخدار به این سو و آنسو می رفت تاوان این سرپیچی ها را با پاهای ناتوانش داد باز هم اتفاقی از این دست در میان بود حتی حرکاتی دست جمعی هم شکل گرفت که همه توسط هیدر مهار شد هیدر دیوانه ید طولایی در سرکوب داشت و با شامه قویش جهگاه هر اتفاقی را در نطفه خفه می کرد و حتی شایع بود که پیش از اتفاق رویای خرابکاری هم برای هیدر مکشوف و قابل دسترس است از همین رو بود که حتی فکر کردن هم سخت و سهمین بود بسیاری خود را به دست تسلاپام می سپردند داوطلبانه به سوی ناصر می رفتند و از او تقاضای تعداد بیشتری تسلاپام میکردند. چرا که تسلاپام این داروی جادویی، این راه کشای عالم حسی، این آخرین منجی مجانین اناوین خطابی از سوی حضرت والا در باب تسلاپام؟ فرای دیگر کارکردهایش قدرت فکر را نیز مختل میکرد. نمیگذاش تا مصرف کننده فکر کند قدرت تشکیل فکر را در ذهن از بین میبرد و ذهن را خالی از هر ایده و نظری میکرد. محمد شبیه به دیگران نبود او در طبقه فوقانی دارالمیجانین حضور داشت اتاقی محقر های معمول زبانی مانند دیگر مجانین کمتر از اصطلاحات انقلابیون استفاده میکرد و چهرهاش بیشتر شبیه به مجانین بود او نزدیکترین انقلابیون به مجانین بود بیشتر به میانشان میرفت با آنان سخن میگفت به درد و دلهایشان گوش فرا داد به دلشان امید روشن می کرد حتی گهگاه در مراسم خصوصی و در میان مجانین از تلاشها و کردارهای اشتباه انقلابیون دم میزد با خواسته های مجانین که برخی ساخته خودش بود هم موافقت می کرد و بیشتر بر دل آنان جای می گوشود. اما قدرتی در اصلاح و تغییر اوزا نداشت این را خویشتن هم به کرات در میان جمع های خرد و کثیر مطرح کرد و تنها به درد و دل بسنده می کرد عده از مجانین دل سپرده او بودند دوست داشتند تا به جمعشان بیاید با آنان سخن بگوید برایشان بزر امید بپاشد و با آب یاریان دلشان را خوش رنگ و میلگون کند از این رو بود که هرگاه به طبقه پایین و به میان مجانین میآمد دورش حلقه کثیر جمع میشدند و شکوایه های کوچک و بزرگ میکردند. برخلاف او دیگر حکومتیان هیچگاه به طبقه زیرین نمی و همواره در طبقه فوقانی سکنا داشتند هرگاه هم که نیاز به سخنرانی بود با فریادهای هیدر همه مجانین به دور هم در صحن مجانین طبقه زیرین جمع میشدند و به فراخور موقعیت یکی از حکومتیان که بیشتر داوود بود برایشان از راهرویی که به شکل بالکن در میان امارت بود سخنرانی میکرد هیدر همیشه در طبقه زیرین بود و به جرأت میشد گفت که او بیشتر از همه با مجانین در ارتباط است بعد از او پرسار و ناصر بیشتر از دیگران با مجانین رو در رو بودند و بیشک مرتبه بعدی از آن محمد بود که با آمدنش شور و هیجانی به بار می آورد. ناصر دکتر روانپزشک دارالمجانین مجانین فرای تبلیغ مکرر از تسلاپام وظیفه دیگری نیز بر دوش داشت وظیفه ای که هیدر با تمام علاقه همواره آن را انجام می‌داد یعنی گفتن از بزرگی و جایگاه قدسی داوود این سلطان با درایت و کمالات این نماینده و نائب به حق حضرت والا چه مدحا که از او می‌گفتند ناصر هم باید در دیدارهای خصوصی با مجانین از داوود می‌گفت از کارهایش از پیشرفتها. از بزرگی و درایتش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 اما جهگاه این صدا و این خطاب حضرت داوود به میان میآمد و دل داوود را آب می کرد. بادی به قب میانداخت میانداخت و شمرده شمرده از کرامات حضرت والا می گفت. گاه عشق در چشمانش جمع می شد. گاه دیوانوار به شمایل بزرگ حضرت والا که در سقف دارول مجانین آویزان بود نگاه میکرد و زیر لب وردی میخواند. همه باور داشتند نام حضرت والا و درود بر روان پاک او را زمزمه میکند و برخی باور داشتند جمله جاوید حضرت داوود را میخواند جمله‌ای که قرار بود کمی بعدتر لغلقه زبان مجانین و دارالمجانین شد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 دستاوردهایی که او برای جهان و دنیای خود میطلبید آری او به دنبال زندگی آسوده تری بود میخواست تا بهترین لذتها را در این دارالمجانین کسب کند بهترین اتاق در آستان دارالمجانین هدف نخستش بود اتاقی نورگیر رو به فضای باز و درختان بیشمار سالنی بزرگ با امکانات بیشمار که دیگر اتاقها نداشتند جعبه جادویی بزرگ و رنگی چای ساز، قهف ساز و دیگر امکانات تفریحی و رفاهی خیلی از مجانین که شانس او را برای جانشینی بیشتر می دانستند، اعتقاد داشتند که او جانشینی را به رفاه معامله کرده است و حال باور داشتند که کسی در دال مجانین جایگاه رفاهی او را ندارد اما قدرت از آن حضرت داوود است این مجانین باور داشتند که او زمام امور را به داوود داد تا خود به تخت شاهی در سایه بنشیند و از قناعم لذت برد آنها دلیل داشتند و برهان میتراشیدند که خود اسخر باعث به قدرت رسیدن حضرت داوود شد اما دیدگاه های بسیار دیگری هم بود مثلا اینکه برخی باور داشتند که شایستگی آن جایگاه تنها در شعن حضرت داوود بوده است و نه کس دیگری و اسخر هم کاری جز تصدیق آن نتوانسته که بکند و یا نظر قدرتمند دیگری که اسخر را دارای لذات و رفاه و ثروت نمی دانستند و او را نیز خادمی در راه انقلاب می شمردند اما چه که بود و نبود اسخر در بهترین اتاق دار سکونت داشت و کمتر خود را درگیر اتفاقات دار المجانین می کرد. و تنها در بزنگاه های مختلف از خود پرده برداری می کرد. و حال آرام در جایگاه رفیع خود به تخت بزرگش تکه زده بود و آرام در بعضی از مراسم نام حضرت والا را جاوید می گفت و خوش نداشت تا مرتبه داوود به جایگاه حضرت والا رسد و از گفتن حضرت داوود اکراه داشت اما با این حال شنیده بودند مجانینی که او هم جاوید حضرت داوود را در مراسم عمومی و خصوصی خوانده است حسن و جواد شبیه به برادرانی دغلو بودند که یکی از آنان بیشتر به مسائلی که داوود در آن تبهر داشت چش بخته است یعنی حسن و دیگری دوست داشت تا به جای حیدر تک کند یعنی جواد آن تو به نوعی مشاوران و در این حال نایبان این دو مقام بودند گوی سبقت را در چاپروسی از دیگران میرو بودند حتی شایه بود که اولین بار حسن لفظ حضرت داوود را خوانده است و این باب بود که او هیچگاه اسم داوود را بی حضرت عدا نمی کند. در عین حال این هم به گوش میرسید که جواد برای هیدر ارزش بسیاری قائل است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 اما تا چشم کار میکرد نیروهایی برامده تا امنیت را پاسداری کنند. هر کدام از ارکان مهم حکومتی دارای مشاورینی بودند که رأس هرم داود به همراهی حسن، اسخر و گهگاه محمد امور اصلی را با راه کارهای بی انتهای حضرت والا اداره میکردند. و هیدری که به کمک مشاوره های جواد با نیروی چند صد نفره تا دندان مسلح به چوب، سرنگ، قیچی، چاقو، گوش به فرمان بودند تا در برابر هر اختشاش و ناامنی بیستند هر کس جایگاه خود را داشت نظم ساخته شده بود مراسم به دنبال یکدیگر انجام می شد. هرکس کس را به درستی انجام می داد و این نظم ساخت جهان مجانین را به پیش می برد. این دارال مجانین سرامد دیگر دارال مجانین های جهان بود. این چیزی بود که مرتب از سوی انقلابیون گفته می شود. به گوش خوانده می و مجانین تکرار می کردند. رتبه رفاه در میان همه دارال مجانین های جهان زبانزد بود. امنیت بدون رقیب در پیش شادی و امید به زندگی در سطر آموزشگاهی برای دیگر دارال و در مجموع هرچه شاخصه پیروزی بود همه در اختیار دارالمجانین انقلابیون و به تدبیر انقلابی ها بود و مجانینی که آرام زندگی می و از صبح به شام را گاه در گنگی گاه در خواب گاه در بیفکری و هماره در سکوت می گذراندند سر تا سر پر بود از شعارهایی که به رنگ سرخ نوشته شده بود مرج بر دشمن نابود باد خیابانها از بین برود هر چه بیرون از دارالمجانین مجانین است جاوید حضرت والا باد داوود کبیر نظم انقلابیون تسلاپام رها بخش همگان و اناوین بیشماری که قدرت و تحکین و درایت دارالمجانین مجانین انقلابیون را به نظرها میرساند. در همین حال بود که همه مجانین دور هم جمع شدند و پیش از خواب بلند فریاد زدند جاوید حضرت والا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 تاب دارالمجانین مجانین اثر نیما شهر بخش دوم هوا برایش سرد بود. مدام دست و پایش میلرزید. نمیدانست سفن از سرماست و یا ترس هم چاشنی این لرزش های مدام اندامش شده است. با این حال با همه توانی که در بدن داشت خود را پیش به سوی اتاق حصر خود میبرد. دو معمور امنیتی در اطرافش، مترسد اشتباهی از سمت او بودند تا چند ضربه ای مهمانش کنند و یا او را حداقل هل دهند اما تاهره زیر بار این خفت نمیرفت و میخواست خود را به سلامت و در نهایت بردباری و مقاومت به سلولش برساند چند باری در طول مسیر قوای تحلیل رفتهاش را از دست داد و تا چند گامی افتادن بر زمین رسید اما باز هم همت درونیش ما از افتادنش شد و دست سپای خود را جمع کرد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 اما وجود پرقدرت این احساسات را همواره در خود لمس می کرد اما پاسخ بدی هر بار بر احساسات خود میشنید. فضای حاکم بر دار المجانی بد بود خیلی بدتر از چند هفته پیش بیماران بسیاری که منگ و بیهوش بر زمین و روی تخت دراز به دراز افتاده بودند برخی بر روی سندلی ها چورت می زدند تکانی هم نمی و مثال مرده ها بر جای خود خشک مانده بودند در همین حال و هوا بود که تاهره زیر لب گفت مجانین مردند و این سرزمین ارواه هست. به درب سلول رسید. در را برایش باز کردند و طبق دستور حیدر او را به داخل اتاق آوردند درب را از پشت بر روی او بستند. اویی زمان انفرادی او کماکان ادامه داشت. خبط بزرگی کرده بود. یکی از قوانین بزرگ انقلابیون را زیر پا گذاشته بود.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 راه ها اندوختند تا ما نباشیم و فراتر از این دیوارها به معنای نابودی و مرگ است به دیوارها چشم دوخت با خود اندیشید حقا چند سانتیمتری متر دیوارها زخیم تر شده است به دیوارها دست کشید رنگ تازه بر دیوار را لمس کرد دوباره دیوار را سفید کرده بودند شاید سفیدتر از صاب شاید هم بر دیوار لایه تازه افزوده بودند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 که درد بر جانش لانه کرده بود تن فرطوتش را میخورد و به پیش میرفت آنگاه که فراموش میکرد برای چند سباهی از خوردن باز میستاد می اما به محض به یاد آوردن دوباره خوردن جانش را از سر میگرفت و جانش را زخمدار میکرد دروازه های پولادین و بزرگ مجانیم باز شد حضرت داوود در هاری که بر تخت سلطنتش در اتاق خود نشسته بود سراسیمه از صدای دروازه ها به خود آمد و فریاد کشید. هیدر، هیدر چه کسی پشت دروازه ها است؟ صدای فریاد حضرت در سراسر دارال مجانی پیچید و هیدری که بر روی مقر دیدبانی تکیه داده بود را به خدا ورد. هیدر به سرعت یکی از زیردستانش دستانش را صدا زد و گفت نزد حضرت برو. و به ایشان ارز کن تا چندی دیگر شرفیاب خواهم شد و گزارش کامل را به ایشان خواهم داد. بعد دوباره به محل استقرار خود غرق شد و با دوربین در دست به دروازه ها چشم دود. به فرمان حیدر همه ی امنیتی در حالت آماده باش بودند تا بلافاصله فاصله با دستور او به دروازه ها حمله کنند. اما بعد از باز شدن دروازه ها دید که دو مرمور در حالی که پسری بیست و چند ساله را در دست داشتند وارد شدند. و بعد از مشاید کردن او به داخل دالان ورودی به سرعت از دروازه های دارول مجانین خارج شدند و درپا را به سرعت به پشت خود بستند این ساعت از روز برای باز شدن دروازه های غیرمعقول مجانین غیر معقول بود زیرا که ساعت آوردن غذا در دارول مجانین مشخص بود و حیدر با شنیدن اولین صداهای مشکوک خود را به مقر دیدبانی رسانده بود هرچند که این مغر همواره معموری در حال انجام وظیفه داشت که هر حرکتی را رست کند. اما در موارد مشکوک هیدر ترجیح میداد تا خود رسن امور را زیر نظر داشته باشد. به هر حال این بار هم دروازه ها باز شد و اتفاق عجیبی نیفتاد. و حال نوبت آن بود تا هیدر خود را به نزد حضرت داوود برساند و گزارش کامل رویدادها را به سم و نظر ایشان ابلاغ کند.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 به او نگاه میکرد و در نگاه و چشمان او حیبت خود را میدید چه صورت برازنده ای داشت چه نگاه سرکش و جسورانه ای داشت او منای جذابیت و کمال بود با های بسیار او را خطاب میکردند اما خود سلطان بسیرت را بیشتر میپسندید اما حال با نام و یاد حضرت والا نامش گره خورده بود و شاید این بزرگترین دستاوردها برایش به حساب میامد به هر حال با شنیدن این نام بر جانش حالت مسانه‌ای به خود گرفته بود و دیگر پس از ادا شدن این نام چیزی از حرفهای هیدر را نشنید در فضایی از شکت و شکوه مسانه به چشمان هیدر چشم دوخته بود و تنها به تصویر خود در آن نگاه و انعکاس آن بر عینک تهسکانیش خیره شد بعد از اتمام حرفهای هیدر رو به او گفت پسرم جای نگرانی نیست هیدر بلا فاصله و معتلی با صدایی رسا و مملو از اعتماد گفت نه سرورم بعد داوود خود را به نزدیک هیدر رساند و دستی بر سر او کشید و اجازه مرخصی را به او داد حال در این احساس مسی و منگی هر دو شریک بودند هم حضرت داوود با شنیدن نام حضرت والا در مسیب سر می برد و هم داوودی که حال مورد لطف و انایت والاترین انسانها قرار گرفته بود بیمار تازه وارد دالان را به سمت درب ورودی و اصلی دارال مجانین می کرد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 او بیشتر از هر چیز از به یاد نیاوردن خاطرات و گذشتهاش رنج می‌برد. ذهن او از هر یک و خاطره ای پاک شده بود. هیچ به خاطر نمی‌آورد. حتی به یاد نداشت اسمش چیست. حتی چه جانداری او از همه دنیا و متعلقاتش دور شده بود و حال در حالهای از ناآگاهی و نادانی وامانده بود. تنها میدانست که باید این راه را به پیش رود و به اتمام برساند. زیرا که مدام از زمانی که به خاطر میآورد به او گوسیت شده بود که باید راه در برابر را به پایان رساند تا به سرایی که به آن تعلق دارد برسد این جملات را مدام به یاد می آورد این تنها دارایی او از خاطرات و گذشته ها بود از دیروز و تمام اتفاقات در جهان باید به پیش میرفت و راه را به اتمام می میرساند مدام در ذهنش بالا و پایین می کرد هیچ تصور و چهره ای هم در برابر دیدگانش نقش نمیبست از همان ابتدایی که به خاطر می آورد کسانی را دیده بود که همه صورتشان را پوشانده بودند با کلاههایی که تنها چشمان و بینی را بیرون نگاه می‌داشت. آنان که تفاوت چندانی با هم نداشتند و حتی صداهایشان هم شمیه به هم بود. به او مدام می‌گفتند باید هرچه در برابر است را به پیش برد و به درستی پیمود. جین سرنوشت و آینده‌ی تضمینی هر کسی است. او به دره دروازه رسیده بود و چندی در انتظار به سر بود. حال در این لحظه در انتظار دوباره سورتک بود که در کلاهی سیاه پوشانده شده اند همه انتظارش به دیدن حیدر رنگ ای گرفت مردی کتاخت با شکمی بزرگ چشمانی از حدقه بیرون زده به همراه عینک تهسکانی. او در برابر درب روبرویش ساده بود به محض اینکه به او نزدیک شد برایشان جسم در برابر چشمانش سوال بزرگ بود آن چیست؟ او برای اولین بار از زمانی که به خاطر میآورد چشم و ابرو دست و پا دیده بود. حتی نمیدانست که خود همچنین شمایل و اجزایی دارد و یا نه. اما با همه اینها بیشتر از هر چیز دیگری عینک بر چشمان هیدر حواس او را متوجه خود کرد. از همین رو بود که دست راست کرد و به نزدیک عینکه هیدر بود. هنوز چند سانتیمتری با رسیدن به عینک فاصله داشت که دو مأمور قول دستان او را از پشت پیچیدند و به زمین کوفتند. در حالی که از درد به خود میپیچید، هیدری را دید که به نزدیکی او آمده است، صورتش را به صورت برخاجمانده او نزدیک کرد و بلند فریاد زد، اینجا قانون حکش فرماس و تخطی از قوانین عواقب سختی خواهد داشت. بعد با تکید بیشتر رو به بیمار تازه وارد فریاد زد، فهمیدی؟ بیمار که از درد فشار دادن دستهایش به خود می‌پیچید با صدایی رسوا و بلند فریاد زد آری رهایم کنید. حیدر با اشاره‌ای به مأموران آنها را از کنار او دور کرد و بعد به بیمار دستور داد تا برخیزد. بیمار از جایش بلند شد و به حیدر چشم دوخت. چشم بر چشمان او دوخته بود و در انتظار شنیدن قوانین بود. شاید هم اصلاً از قانون هیچ نمی‌دانست و چیزی به خاطر نمی‌آورد و تنها در آن لحظه به یاد آورده بود که باید جواب مثبت دهد تا از این شر رهایی یابد. شاید این رفتار او کاملا غریزی بود. هیدر به تندی گفت: قانون اول را همین نخست بدان. به چشم دیگران زل نزن، مخصوصاً اگر آنها مقامی والاتر از تو داشته باشند.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 جواد به میان حرفش آمد و فریاد کنان گفت باید خود به حضور حضرت برسم و موضوع را به ایشان گوستد کنم حضرت داوود بزرگ ماست و باید که همه چیز را بداند حضرت داوود را به مرتبه بلند گفت که گوشهای هر بشری در ساختمان دارول مجانین تیز شود و خود حضرت همین صدا را بشنود در همین گیرودار بود که حضرت به روی ایوان مشرف بر طبقه پایین آمد و گفت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 ما فراتر از مبارزه با آنان نیاز به پیشگیری نیز داریم. حیدر در حالی که سر را به پایین انداخته بود و عرق شرم از پیشوبانش به زمین میچکید رو به داوود کرد و گفت حضرت والا کمکاری از من بوده است مرا عفو کنید دوباره شنیدن نام حضرت والا این بار در جمعی دو نفره و باز هم از زبان حیدر داوود را دیوانه میکرد داوود مسانه رو به هیدر کرد و گفت تو خادمترین مردانی، تو صادقترین آمرانی، تو برترین ضعیفانی آری تو بهترین انقلابیانی هیچ قصوری از تو سر نزده اما باید که جبهه من را تقویت کنی در این باب مفصلا سخن خواهیم گفت و فکر و ایده ها را بررسی خواهیم کرد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 جواد رو به داوود گفت حضرت والا دستور شما چیست با خاطی چه داوود گفت او را برای مدتی به بخش بیماران خطرناک بفرستید تسلاپام بیشتر به ناصر هم گوشزد کن که باید بیشتر از این وقت بگذارد بیشتر تلاش کند ما به مفت خوارگان زمان نخواهیم داد در حالی که حیدر چشم بلندی گفت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 او در این روزها مدام به گوش عناوین بسیاری شنیده بود از ارزشهای والای تسلاپام برای درمان و سلامتی بیماران از بزرگی و منش والای حضرت داوود و ایده های بزرگ انقلابیون پیشتفت های روزفصون آینده روشن و هزاری سخنان دیگر و حال در اتاقش آرام به همه موضوعات فکر میکرد همه چیز را در ذهن حلاجی میکرد میخواست تا رابطه های بسیار میان این عناوین را بجوید و به آنان سر و سامان دهد اما راه درستی برای این برقراری ارتباط نمی جست همین چند دقیقه پیش به همت خودش و تقاضای بسیارش دو قرص دیگر تسلاپام از ناصر گرفته بود و مسانه آنان را بی آب جویده بود تعم دیوانه کننده تسلاپام را زیر زبان می آورد با خودان مذه خارقلاده را دوباره صرف میکرد و باز برام بود تا به تغازای دوباره تسلاپام بیشتری به دست آورد از این رو دیگر هیچ توانی برای جمع جور کردن افکار در دلش نمانده بود و مدام از شاخه تقاضای تسلاپام به بزرگی و شکوه می میرسید مدام در این هزار تویی که برای او دو راه ساخته بودند به راهی میرسید و هیچ راهی به بیرون نمیافت در همین حال، در حالی که زیر لب مدام وردی میخواند به درب سلولش گفت. بعد از چندی معمورینی در را گشودند، زینب آرام و زیر لب خاند. حضرت داوود پروردگار عالمیان است. دو معمور شوکه و مات به او چشم دوختند. نمیدانستند چه کنند. از این رو به سرعت هیدر را فرا خواندند تا به بالین سر بیحال او برسد،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 جایی که دیدگان والای حضرت داوود بران مشرف بود بعد با صدای بلند فریاد زد حضرت داوود پروردگار آلمیان است او این را گفت و به خاک نشست و جایگاه رفی حضرت را ستایش کرد. همگان در دارال مجانین به او چشم بوخته بودند حضرت داوود لبخندی آرام بر گوشه لبانش نقش بسته بود و صورتش تا حد بسیاری سرخ شده بود. در همین هنگام، حیدر از اتاق او بیرون آمد و تا نیم تنخ خم شد و در برابر حضرت کرنش کرد. به فاصله کمی از او، همه مامورین امنیتی کار او را تقلید کردند و این مسابقه در تقلید به بیماران دیگر نیز سرایت کرد. و حضرت داوود در حالی که عرق را از پیشوانی پاک می کرد دستانش را آرام در آسمان تکان داد و همه فریاد زدند حضرت داوود پروردگار عالمیان است در این میان از صدا و حیاهوی همگان که به بیرون آمده فریاد می زدند دیگر انقلابیون نیز به ایوان خود را رساندند و با این صحنه نوزهو را آشنا شدند هیچ در برابرشان نبود جز آنکه به تقلید از حیدر و دیگران کرنش کنند و چندی از حضرت فاصله گیرند که او جایگاهی قدسی است. هرکس خود را به خضو و سجود تکریم رساند و آخرین آنان که کرنش کنان در برابر حضرت خم شد از بود که مدام زیر لب ندایی را می بیشترم باور داشتند او این گونه میخاند که حضرت داوود پروردگار عالمیان است اما بعضی هم بودند که این ورت ها را پرولوند های او از جایگاه خیش و جایگاه رفیع داوود می دانستند. بعد از پایان نمایش و ستایش آنگاه که همه به اتاق خود باز میگشتند هیدر از پله ها بالا آمد و به چشمان همه انقلابیون چشم دوخت به ویژه جواد که مات به اون نگاه میکرد بعد با لبخندی به آنها سخن ها گفت و آرام در انتها بوسهای به دستان حضرت زد تا باز هم جهان انقلابیون در دارالمجانین ادامه داشته باشد و به فردا باز صدای تازهی از گوشه و کنار شنیده شود کتاب دارالمجانین مجانین اثر نیمان شه بخش سوم. هیدر در اتاق دیدبانی به انتظار نشسته بود. نفسش را مدام به تو حبس می کرد و آب دهانش را غورت می داد. دستانش خیس از عرق می شدند. مدام دستانش را با شلوارش پاک می کرد. عرقی سرد بر پیشانیش نشسته بود و دائما زیر لب وردی را تکرار میکرد. خیلی مشخص نبود چه میگوید. شاید بر روح والای حضرت داوود درود میفرستاد. شاید نام خدا را میخواند و شاید ترکیبی از درود فرستادن بر خداوند بزرگ و حضرت که همان نام تازه پروردگار عالمیان بود را زمزمه میکرد. پر استراب در حالی که به لبه پنجره تکیه داده بود،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 از چندی پیش به آنان آرایش تازه و بیبدیلی داده بود. ستا ستا در گوشه هایی در انتظار فرمان او بودند. در میان دیواره های نیمه کاره، میان حیات پشت، پشت در به ورودی دار مجانین با کمی فاصله و در کمین به پشت تنها درخت سرکش میان با. زیر اتاقک دیدبانی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 بعد از خاتمه سخنرانی کوتاهش تمام مامورین به نشانه احترام پاچسپاندند و دستها را رو به آسمان بلند کردند. بویی میخواهند دعا کنند و در پایان فریاد زدند. زنده باد، استقلال پروردگارا امداد. هیدر دوباره چشم به میان دوربین شکاری برد و نگاهش را معطوف در به ورودی دارول کرد. دیگر زمان شروع عملیات بود که روزها برایش ریزی شده بود. تلاش ها کرده بودند تا این عملیات بزرگ را به سرانجام برسانند نام عملیات عملیات تحکیم بود در به ورودی دارول باز شد و طبق معمول معموران حکومتی که وظیفه آوردن غذا را داشتند وارد دارول شدند آنها طبق معمول عادت داشتند تا چندگامی را به داخل بردارند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 همه این غفلت ها زمان لازم را به گروه فداییان حضرت داوود نام تازه مأموران امنیتی دارول داد تا در چشم هم زدنی دروازه‌های اصلی دارول مجانین را ببندند و بلافاصله فاصله حکومتی را که با دیکای غذا در دست خوش بر جای بانده بودند به زمین زدند. آنها زمین خوردند و یک به یک ممورین دارول مجانین به بالای سر آنان شتافتند و در چشم همزدنی آنان را دست و پا بستند و بر سرشان کیسه های مشکی بزرگ رنگ کشیدند و به سمت دارول مجانین هدایت کردند. ممورین حکومتی داخل اتومبیل تازه به خود آمدند و فهمیدند که درب دارول مجانین بسته شده است و از دوستان آنان خبری نیست. از این رو بود. که یکی از آنان به سرعت خود را به پشت درب دارال مجانین رساند و با مشت بر درب کفت چندی نگذشت که بلنگوهای بیرون آسایشگاه روشن شد و صدای حیدر در محیط بیرونی دارال مجانین پیچید دشمنان نظم و انقلاب جهانی ما ای دیو رویان بیسفت آگاه باشید و بدانید که این صدای انقلاب مجانین است انسانترین انسانها این صدای پروردگار جهانیان است این صدای سخنگوی حضرت والا بزرگ مرتبت حضرت داوود آیت و نشانه خدا بر زمین نائب به حق و حقیقت پروردگار با شما مرتدان و شدهگان است دوتن از شما گید به چنگ حق در آمده و ما آنان را برای احقاق حقوق پایمال شده ایمان به چنگ آورده ایم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 زودتر با ولی و صاحبان خود به حضور عالی جناب حضرت داوود درایید تا در ازای خواستهای ایشان افراد خود را به در برید. هیدر اینگونه سخنرانی خود را به پایان رساند و فریادهای بلند یا خدا یا داوود به کرات از دارالمجانین بلند شد و معمورین حکومتی را سخت پریشان احوال کرد.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 حضرت داوود شدند. حضرت بر تخت خود نشسته بود و دستانش را به لبه آن داده بود. هیدر با وارد شدن گفت: "زنده باد حضرت والا" و به سرعت خود را به دستان حضرت رساند و بر دستانش بوسه ای زد. به فاصله کوتاه جواد هم با تکرار حرکات حیدر خود را در این رقابت به همپایی او رساند. هنوز جمله دیگری میانشان رد و بدل نشده بود که خر وارد اتاق شد. بی هیچ ادای احترام و رفتار معمول برای حضرت داوود گفت این چه کاری است که کردید معنای این نمایش چیست آنها را برای چه به روگان گرفته اید حیدر چشمانش سرخ شده بود میخواست به سمت اسقر هجوم برد میخواست تا خرخرش را در میان همان اتاق بجود اما خود را آرام میکرد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 این دشمنان را به اتاق حس ببر تا جلسه را تشکیل دهیم. همه حق دارند تا آرا و نظرات خود را منتقل کنند. ما باید به جمعبندی درستی برسیم. جواد دو را بیرون برد و حضرت داوود بر تخت نشست.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 آیا فکر نمی‌کنید که این اهرم فشار نتیجه عکس دهد؟ هیدر با نگاهی به حضرت از او اجازه سخن گفتن خواست و با تایید حضرت گفت: آری، شاید که نتیجه عکس دهد. شاید که خاک دارالمجانین به توبره کشیده شود. راه انقلاب ما نیاز به جانبازی دارد و این انقلاب نیازمند از خود خودگذشتگان است نه مفت خارگان. اسخر به میان حرفش آمد و گفت: برادر میان این جانبازی و دیوانگی حدی قائل شد میان شجاعت و حماقت مرزی بگذار این دیوانگی است ما به دهان شیر خود را قرار داده این حضرت که عصبانی بود فریاد زنان گفت من شما را برای لاب و نوه خانی اینجا جمع نکردم هرکه که فکر می کند این کارها خطرناک است و از جانش می ترسد راه در پیش روی اوست با همه شما هستم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 همه ساکت بودند و کسی چیزی نمی گفت که هیدر با حیجان بسیار گفت حضرت والا از دشمنان مهدی را بخواهید آن قاتل خونخار را طلب کنید تا به دار بسپاریمش تا انتقام خون یاران را از او باز ستانی. در سانی شاید او خیال بازگشتن و فرمانروایی بر این خاک را در سر داشته باشد از نظر من بهترین خواسته ها درخواست او و دار زدنش است اسخر آرام و شمرده گفت به داراویختن او علاجی بر دردهای ما نخواهد بود. با کشتنش چیزی از دردهایمان کم نخواهد شد. درسانی او هیچگاه به این مجانی باز نخواهد گشت. او جان و زندگی خود را از اینجا نجات داده است. از چه رو برگشتن خواهد داشت؟ ما باید از آنان خواسته مادی داشته باشیم. مثلا بوجهی که به ما اختصاص دهند تا ما به واسطه آن بتوانیم ساخت و ساز کنیم، پیشرفت رفت کنیم، قدرتمند شویم. ما باید از آنان تقاضای تجارت آزاد کنیم تا بتوانیم از این دارالمجانین المجانین مکانی برای کسب ثروت و قدرت بسازیم. داوود بر سخنان اسخر مکسی کرد و گفت نظر هر دوی برادران خوش است. بعد رو به اسخر کرد و گفت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 دستگاه چاپ بگیریم تا هم اوقات تفریح برای مجانین بسازیم و هم در کنارش با جهان بیرون ارتباط ای برقرار کنیم. داوود خشمالود و زنان گفت بیرون دشمن همه ماست. چه نیازی به این سمب کشنده است؟ جواد دنباله حرفش را گرفت و اضافه کرد آری آنان ما را مسموم خواهند کرد و اینگونه ما به انحطاط کشیده خواهیم شد. حسن به میان حرفش آمد و با لوندی خاصی که مختص خودش بود رو به داوود گفت پروردگارا آیا ما نمیخواهیم این انقلاب بزرگ را به جهانیان هدیه دهیم؟ آیا نمیخواهیم که جهان را به بودن من، به ماندنمان، به باورمان من همرنگ سازیم؟ علا حضرت ما نیازمند این ارتباط هستیم، نه برای ذلیل شدن که رفی شدن، نه برای واردات ارزش‌های آنان که برای صدور انقلاب برای روشن کردن چشم جهانیان به این خورشید عالمتاب همه فریاد زدند یا داوود یا خدا یا داوود یا خدا یا داوود یا خدا جلسه آن روز انقلابیون به پایان رسید و در این جلسه نگاه جمعی برای خواسته های یکسان هم رنگ شد آنها به توافقهایی رسیدند و در پایان جلسه حضرت داوود به همفکری هیدر اناوین خاصه ها را مشخص کرد. بعد از همین جلسه شاید چند دقیقه بعد از پایان صحبتهای هیدر و داوود صدای بلندگوی نیروهای حکومتی تمام فضای دارولمجانین را پر کرد. در ابتدا نظر بر به توب بستن دارولمجانین داشتند، اما با مشورت از بالا چنین دستوری برای آنان صادر نشد و های مذاکره برای آزادی ها باز شد. انقلابیون خاصه های خود که بر سه بخش کلی متمرکز بود را با حکومتیان در میان گذاشتند. یک باز پستادن محدی و محاکمه او به دست انقلابیون. دو باز شدن راه های ارتباطی برای تجارت، خرید و فروش کالا بین دارالمجانین و جهان بیرون.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 از این رو حسن به مذاکرات رفت و با دست پر در آخر بازگشت گروه حکومتی با دو شرط موافقت کردند اما بازپسادن مهدی را قبول نکردند آنها ازان کردند که مهدی به بیرون مرزها گریخته است و دست بسته او را در اختیار دارالمجانین قرار دادن غیر قانونی و غیر ممکن است این نتیجه مذاکرات جمعی از انقلابیون را خوشحال و سرمست کرد اما داوود و بیشتر از او حیدر در آتش عصبانیت میسوختند شایع بود که جواد او را در اتاق هست در حالی که با چاغویی به دنبال گروگانگیرها میگشته گرفته است و نظر حضرت آورده تا او را آرام کند زیرا هیدر باور داشت در ازای خون کثیف محتی باید خونه یکی از گروگانها ریخته شود هرچه که بود و نبود در انتها در حالی که حضرت داوود در طبقه فوقانی دارالمجانین مجانین ایستاده بود هیئتی متشکل از جواد، حسن، حیدر دو گروگان را به پیش بردند در پیشگاه حضرت و در برابر دیدگان همه مجانین آنها را به زمین کوفتند و با تهدید وادار به پابوسی حضرت کردند و حضرت دست ای بر سر آنان کشید و آنان را مورد عفه بزرگی خود قرار داد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 اثبات این مدعا از پیپی در دستان حضرت بود که از فردا مدام در دستانش دیده میشد. برخی می گفتند داخل چمدانها اشیای قیمتی از قبیل عسا و پیپ بوده است زیرا حضرت از آن پس اصایی هم به دست می گرفت که به وقار و جذابیتش چند برابر می افزود هرچه بود و نبود هرچه به هر کس رسید و نرسید این قائل نیز به پایان رسید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 تأثیر به سزای تسلاپام که از مجانین انسانهای پاک، آرام و متی ساخته است به وسیله این شیطان که حتی از زیده او بیشتر از مسیح وحشتناک است برای مجانین مخرب است. این داروهای سمی آنان را تغیانگر و بیپروا خواهد کرد. حضرت به گفته های او فکر می کرد و همباره با او یک دل و یک صدا بود. اما جانب محمد را هم می گرفت. محمد ادعا داشت که ما برای رضایت مجانین هم باید کارهایی بکنیم. همین وسایل ارتباط جمعی یکی از خاصه های آنان است که میتواند اوقات فراغت آنان را به درستی تیک کند. مجانین پیش از انقلاب تلویزیون هایی داشتند که در سالن اجتماعات آنان نصب شده بود و در ساعاتی مقرر می توانستند از آن بهره جویند. هرچند در انتخاب برنامه ها و پخش آنان از سوی مهدی و دار و حساسیت و دقت فراوانی خرج اما در مجموع زمانی برای تماشای آن در اختیار مجانین قرار می گرفت. اما در پی انقلاب و شورش مجانین به رهبری حضرت والا این تلویزیون شکسته شد بعضی را سوزاندند حضرت والا فرمان داده بود و خانده بود که اینها آوای شیاطین است از این رو بود که خود حیدر در میان سالن اجتماعات در یکی از روزهای انقلاب در تظاهرات سراسری بزرگترین تلویزیون مجانین را یک تنه به آتش کشاند و در بالای جنازه مشتعل تلویزیون فریاد یا حضرت والا سر داده بود با همه این تفاسیر هرچه محمد درخواست کرد نتوانست تا آرای حضرت داوود را جذب کند و او را به این منطق همراه سازد که این وسایل ارتباط جمعی اوقات فراغت مجانین را بهتر و آسوده به پیش خواهد برد. محمد در دیدارهای پیاپی که با مجانین داشت همواره از حال آنان و درخواستهایشان با خبر بود میدانست یکی از خواستهای آنان رفتن به هواخوری است. اما با این مخالفت های وحشتناک و رادیکال انقلابیون میدانست که در میان گذاشتن این خواسته مجانین کار عوض و بیهوده است. از این رو بود که در این باب حرفی را مطرح نکرد و همه را به کلی به صندوقچه اسرار قلبش سپرد. و ارتباط جمعی یک به یک میان انقلابیون تقسیم شد. اسخر با آن که در اتاقش تلویزیونی داشت اما باز هم طلب یکی دیگر کرد و با خاصش مخالفتی نشد. برخی از انقلابیون این رفتار داوود را در جذب او برای همراهی با انقلاب می‌دانستند، زیرا او مغز متفکر این انقلاب به شمار می‌رفت. راهکارهای او همواره راه کشا بود و داوود نمی‌خواست این یار غار را به سادگی از دست دهد. همه انقلابیون تا حتی پرستار صاحب تلویزیون و رادیو شدند، اما در تلگراف و تلفن شرایط به طور دیگری بود.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 ابزار کار تهیه می کرد. شوب اختیار کرد و کارگاه خود را مجهز به بهترین وسیله ها کرد. سؤال بزرگ همگان این بود که او این پول ها را از کجا به دست آورده است. بیشترن این پول ها را با همان چمدان ها سنجیدند و برخی باور داشتند او ثروتمندترین انقلابیون از دیرباز بوده است. و ای پر از اشرفی از دیرباز در دار المجانین به همراه داشته و حال زمان هزینه کردن برای اندوختن ثروت بیشتر است. به هر روح که در پیش بود، روزگار اسخر به پیش رفت و کارگاه با شکوهش را تأسیس کرد و به برخی از مجانین شغل داد. به دینجا خاتمه نیافت. هر کدام از انقلابیون به دنبال تأسیس فضایی برای خود برآمدند. حسن دست به تأسیس کارگاهی برای ساخت کفش زد. جواد توانست کارگاهی در راه ساخت پالایه های هوای اتومبیل دایر کند. ناصر برام بود تا آزمایشگاهی برای ساخت دارو بسازد و معصومه را در این کار همراه خود کرد. هیدر در تدارک نیروی امنیتی بیشتر برآمد و با سازوکار آنها رنگ تازه ای داد. لباسهای متحدل شکل، ابزار تازه برای حفظ امنیت از قبیل شک برقی، باتوم و غیره. حتی او پس از چندی به دایر کردن کارگاهی مشغول شد که در آن به ساخت ادوات نظامی از قبیل باتوم و شکرپه پردازد می گفتند رو از سوزنها و آنپولهای دیرباز تفنگی ساخته که قادر به شلیک در برد صد متریست بسیار کشنده و مؤثر است محمد بیشتر با مجانین همراه می شد تا نمایش های تازهی برپادارند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 بعضی می گفتند او تمام فکر و ذکر را در راه صدور انقلاب گذاشته است. بعضی از آن داشتند او کارگاه های بیشماری بیرون از دارول دایر کرده است. بعضی خوشبین بودند و بوجه ها را صرف همین کارگاه های داخلی می دانستند. اما چه که بود همه چیز در حد حد گمان باقی می ماند و فراتر از آن نمی رفت. جز داوود و حاله مرموز به دورش همه صاحب شغل و کارگاهی شده بودند و در پی پیشرفت و قدرتگیری دارولمجانین برآمده برآمده بودند و روزگار تازه دارولمجانین در پیش حضور دیدگان بود. چندی از این روزگاران نگذشته بود که محمد خود را به بخش بیماران خطرناک رساند. فضایی دیوانوار بیمارانی که با قل و زنجیر به تختها بسته شده بودند فریاد میزدند، اربد سر می بعضی اوقات به تن و جان خود ضربه میزدند میخراشاندند و باز تسلاپام بیشتر علاج کار آنان بود. محمد بران شده بود تا از سرنوشت حسین با خبر شود. او از همان روز نخص میدانست که او در ازای کشیدن نقش و نگار محکوم به بخش بیماران خطرناک شده است. با هماهنگی ناصر و بدون اجازه از حضرت داوود خود را به بخش بیماران خطرناک و به اتاق حسین رساند. او را با زنجیر به تختی بسته بودند دست و پاهایش در بند بود اما حرکات خاصی نمی کرد آرام به جا خشک کنده و به سقف چشم دوخته بود محمد بالای سرش نزدیک به تخت نشست رو به او گفت حالت چطور است حسین جان حسین در حالی که چشمانش هنوز بر سقف دوخته شده بود با صدایی خفه گفت نقش بر سقف را میبینی محمد پاسخ داد نه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 مثل آن که از خاطرت رفته هست من که هستم من نیز یکی از همان انقلابیون هستم میتوانم این تمرد تو باعث مکافاتی از سوی من شود ناصر که کلافه بود گفت باشد انقلاب از آن شما اما من نیز کم برای این انقلاب خدمات نکردم این درمان معجزه آسای من است که از این یاغیان این گونه تابعانی میسازد محمد به تندی گفت حال دوراهداری یا در راه من شریک شوی و در انتظار پاداش بنشینی و یا به ترس حیدر در انتظار مجازات من باشی ناصر دست و پایش را جمع کرد و گفت باشد او را ببر اما روزی بیست تسلاپام را فراموش نکن محمد با حسین از بخش بیماران خطرناک بیرون رفت به کارگاه خود رسیدند هر روز بیست تسلاپام و گاه بیشتر در اختیار حسین میگذاشت و مدام با او حرف میزد. از همه چیز با هم گفتند و سرآخر تمام گفت و شنودها سرآخر تمام در کارگاه بودنها روزی شد که حضرت داوود را به ایوان کشاندند و تمثیل بزرگ در برابرش نقش دادند تمثیلی با شکوه و روحانی تصویری عظیم از جذبه و قدرت مردی روحانی و قدسی با ریشهایی بلند و صورتی کشیده روی تصویر حضرت داوود است که به سخن آمده رویان شکوه دوباره پیکر بسته و نوایان شده است آنگاه که پردهها از برابر تمثیل به کنار رفتند همه بر جای خیش مات و مپوت ماندند از مجانین تا تمام انقلابیون حتی هیدری از شکوه تصویر حضرت داوود بر پای استوار نماند و بر خاک نشست محمد رو به همه از همان طبقه زیرین دارالمجانین بلند بلند داد سخن داد حضرت والا، ای بزرگ جایگاه انسان ها، این مرتبه و شعن شماست که از هر یاغی تابعی خواهد ساخت، همه را فرمان بردار خواهد کرد و این گونه شکوه شما را به تصویر خواهند کشید. ای برادران بدانید، این همان حسین دیرترهاست، این همان روح است که فضاحت بار آورد و بیرون از دارالمجانین را تصویر کرد، اما حال به عظمت و شکوه انقلاب و سرور انقلابیون آگاه شده است و اینگونه گونه نقش بر تمثيل والاگوهرمان را نقش داده این از برکت و شکوه حضرت والا خورشید عالم تاب ماست بعد آرام به گوش حسین وردی خواند و حسین رو به جماعت گفت جایگاه پرسش تنها از آن شاه شاهان است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 چه عالمانه نگاه می دوزد چه با بصیرت فکر می کند و چه والاست این جایگاه رفیع پرستیدن پس از آن حسین به کارگاه محمد رفت و یکی از نقاشان بزرگ این درگاه شد تا تصاویر بی از رزمها، از انقلابها، از جنگها، ها از شکوهها و از والایی حضرتان ها ببندد و همه بدانند که این جایگاه والا از آن کیست؟ در انتهای همان مراسم با شکوه بود که حضرت داوود با اشارتی به محمد فهماند که دستش برای پرورش همگان در این دارالمجانین باز خواهد بود. قدرتهای بسیار در اختیارش قرار خواهد گرفت. ردیف خوجهی جداگانه برایش در نظر خواهد گرفت و بسیار از کارها را بی دیگران به پیش خواهد برد. در پایان همان مراسم بود که ناصر بیشتر فهمید دانس که چه باید بکند و دیگران چه برایش نخواهند کرد. دانست که او هم در این انقلاب نقش و سهم خواهد داشت و باید خود را به خزینه این انقلاب تر کند تا غنیمت بیشتری کسب کند. با نگاه به همه مجانین و در دست نگاه داشتن تسلاپان فهمید که بزرگترین قدرتها در اختیار اوست و او چه ها که میتواند بکند و چگونه به هر خواسته خواهد رسید. کتاب دارالمجانین مجانین اثر نیما شهستواری بخش چهارم اصر یک روز معمول بود که حال و هوای دارالمجانین مجانین به کلی تغییر کرد حامل این تغییر یکی از مجانین به نام سجاد بود سجاد یکی از مجانین جوان در بخش مردان بود جوانی ساکت و آرام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 کلافه و نالام بود. از این گذر عمر در بتالت و کوچی می هراسید. سردرگم به این سو و آنسو راه می رفت. هیچ برنامه مشخص و معتبری برایش وجود نداشت. در این بازی تازه دارول مجانین سرش بیکلاه مانده بود. عضو هیچ کدام از دسته های کار و کسب نشده بود. مدتی برای کارگاه اسخر کار کرده بود. اما روش های کار آنان را نمیپسندید اینگونه مدام از آنان کار کشیدن بدون هیچ پیشرفت و اطلاع برای سنگین و سخت می‌آمد. هیچ به دنیا شخصافزودده نمیشد و تنها مجبور بود تا در ساعات بسیار از روز کار فراوان انجام دهد. از همین رو بود که پس از مدتی دیگر به محل کارگاه نرفت. این نرفتن برای او پیامدهایی داشت، اسخر موضوع را با هیدر در میان نگذاشت شاید به واسطه کدورت‌های شدید بینشان. اگر اسخر از او، و رفتارش برای هیدر چیزی گفته بود با توجه به قدرت فزاینده که داشت حقا سرنوشت شومی در انتظار سجاد می می‌گرفت اما اصغر موضوع را با جواد در میان گذاشت و جواد به تهدید سجاد پرداخت چندی او را مورد ضرب و شتم نیز قرار داد چند روزی او را در بین بیماران خطرناک هم بستری کرد و به ناصر گوسد کرد که دوز تسلاپام را به ویژه برای او زیاد کند اما در پایان همه اینها با سهلنگاری او را به دست فراموشی سپرد و حال سجاد برای مدتی بود که بیانجام کاری در بین مجانین وقت ظرف میکرد. حالا سجاد در این بعد از اخر شوم مدام به این سوانسو میرفت. به دنبال دریچهی بود تا راهی برای به دربردن روزگار بجوید. اما همه دروازه ها به نیستی و پوچی در برابرش کشوده میشد. سجاد رفت و در ای از سالن اجتماعات دارالمجانین سرش را مدام به دیوار کوفت ضربات سر او آرام و بیرمق بود و چنین رفتاری در دارالمجانین طبیعی و معمول تصویر میشد از همین رو بود که کسی او را جدی نگرفت اما این کوفتن سر به دیوار با ورتهایی همراه بود او مدام چیزی را میخواند یک صدا تکرار می میکرد صدایش در ابتدای امر کوتاه و بریده بریده بود اما با فاصله گرفتن از شروع این ناله ها هم زربا کوفتن سرش به دیوار و هم صدایش را رو به بالا و به اوج گرفت و در چندی به یکباره باره بدل به سجادی شد که به میان مجانین راه یافت و معرکی گیری کرد او رو به همه مجانین در حالی که به ایوان بالای دارالمجانین کش بوخته بود فریاد زد ای شاه شاهان ای پروردگار عالمیان حضرت داوود ما را دریابید ما به سطوح آمده ایم، ما نیاز به ساعتی برای هواخوری داریم ما هوای آزاد می خواهیم. دل دلمان برای دیدن خورشید آسمان ابرها ماه لک زده است ای پادشاه بزرگ عالمیان ای خورشید تاب، ما را دریابید او اینگونه گفت و بعد از چندی اشک از چشمانش لبریز شد این گفتن او کافی بود تا آرمان نیز از میان جمعیت مجانین به او پیوندد او که مجنون تازهواردی بود بعد از گذر زمانی مشخص از بخش بیماران وارد به بخش مردان منتقل شده بود و حال در این بعد از او خشوم از روی غریزه به سجاد پیوست و در کنار او عیساد و اینگونه گفت ما هوا میخواهیم. او این را گفت و از دل جمعیت مجانین تعدادی به کنار آنها آمدند تعداد رو به فزونی بود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 بعد از آن شورش‌های انقلابی، نخستین بار بود که مجانین به یکباره باره بی‌برنامه‌ای قبلی در کنار هم جمع شده و شعار می‌دادند. آن هم بر علیه نظم و ارزش‌های رایج در میان انقلابیون. صدای مجانین رو به آسمان رفت و فریادها بلند و بلندتر شد. همه از هوا و هواخوری گفتند از تنگی نفس‌هایشان.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 به جز داوود، همه انقلابیون به ایوان طبقه فوقانی دارالمجانین آمده بودند و صحنه ها را تماشا می کردند. هیدر به همراه نیروهای امنیتی وارد صحنه کارزار شد و به فاصله کوتاهی جماعت را متفرق کردند. همه به سمت بخش خود پراکنده شدند. ضربات باتوم، شکای الکتریکی جماعت را به وحشت انداخت و هرکس از سوی راه را به سوی بخش های نظر خود پیش بود. این متراکم کردن آنها ادامه داشت تا به حسه مرکزی تظاهرات رسیدند. دقیقا جایی که سجاد و آرمان قرار داشتند. به جز سجاد و آرمان تعداد دیگری را نیز دستگیر کردند و همه را با هم به سمت بخش بازیابی و حصر منتقل کردند. این بخش تازهی بود که به واسطه بودجه تازه اختصاص یافته به دارالمجانین توسط حیدر به فرمان داوود ساخته شده بود. این بخش در منتها اله بخش بیماران خطرناک ساخته شده بود و سازوکار تازه ای داشت. بیشتر آن در زیر زمین بود اما تمام صداهای بخش بیماران خطرناک را به خود جای می داد. در گذشته چنین بخشی تعبیه نشده بود و به جز اتاق حسری که در طبقه فوقانی دارالمجانین قرار داشت بیشتر زندانیان به بخش بیماران خطرناک منتقل می شدند.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 که محمد در میان تظاهرات در طبقه پایین و در میان جمعیت دیده شده و به جز حضورش با تومی در دستش را نیز مجانین دیده اند. این جمعیت هنوز زمان زیادی از رفتنشان نگذشته بود که حضرت داوود به ایوان آمد. همه بحت زده به هم نگاه میکردند. انقلابیون تحمل روبرو شدن با چنین سحنه را نداشتند و داوود شاید بیشتر از همه در بحت و حیرت اسیر بود.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 اینان به جنگ ارزش ها آمده اند. اینان آمده تا ما را خار کنند، اینان حسی خود را به دشمن فروختند، جماعت فریاد زد، مرگ بر دشمن، مرگ بر دشمن، حضرت ادامه داد، آری، اینان به هوای هوا استقلال ما را دار می کنند، ما را می و جهانشان را به تاراج می دهند، هیدر که تازه از بازداشت جماعت مترس فراغت یافته بود از همان زاویه دور فریاد زد داوود شاه، داوود خواه، میدان جنگ است اینجا ممورین امنیتی به تبعیت از اون شعار را تکرار کردند و داوود با غروری مضاعف و روحیه بیشتر ادامه داد تا ما زنده باشیم این دشمنان به هیچ نخواهند رسید و آب در هاون خواهند کوفت. دوباره جمعیت شعار داد و داوود خطابه کرد و حرفها ادامه پیدا کرد و جماعت با شعار یا داوود یا خدا که محفر همه شعارها بود بالاخره به بخش ها رفتند و دنیای تازه سجاد و آرمان نیز شروع شد. هیدر معمور بازجویی سجاد بود و جواد با اصرار بسیار موفق به گرفتن بازجویی آرمان شده بود. وظیفه تعریف شده برای هیدر از پیشترها مشخص بود و بیفوت وقت به سوی سجاد رفت. در اتاقی که صدای بیماران خطرناک، ناله ها، فریاد ها، شیون ها، گوش را کر کرد در حالی که سجاد را به صندلی بسته بودند این شروع کرد. چه کسی تو را تحریک کرده است؟ مادر به خطا هر چند که رکی که بسیار دیگری هم داد اما تنین کلمه مادر در گوش سجاد پیچید به یاد مادرش افتاد اما او که هیچ خاطره‌ای از گذشته نداشت هیچ به یاد نمی‌آورد نمی‌دانست مادرش کیست و حال با آورده شدن نام مادرش مدام چهره و سیمای مادر را در دل مجسم می‌کرد از این رو بود که در برابر فریادهای وحشتناک هیدر به یک گفت مادر هیدر رو به سجاد آرام گفت مادر از تحریکت کرده است؟ راستش را بگو چگونه تحریک شده ای؟ شما همیشه این گونه روابطی را دنبال می کردید؟ سجاد به چشمان هیدر چشم دوخته بود در گودی چشمانش به دنبال واجهی تازه ای که با ضربتی به گوشش رشته افکار را از دست داد. آب سرد بر سر و صورتش ریختند. آبی که از سرمای آن جان و تنش لرزید. بعد از ریخته شدن آب سرد، پیدر شروع به ضرب و شتم کرد. بیشتر سیلنی میزد ضربات را یکی پس از دیگری بر سر و صورت او می‌کوفت و بعد از فاصله زمانی کوتاه دوباره آب سرد بر سر و صورت او میریخت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 فریاد زد تو را به خدا راحتم بگذار توان حرف زدن ندارم هیدر آمرانه رو به سجاد کرد و گفت خدای جهانت حال من هستم هر چه میخواهی از من بخواه این را شمرده شمرده به او گفت و به مأمورین امنیتی فرمان هشتاد ضربه شلاق به کف پاهایش را داد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 میدانی که چه با تو خواهند کرد. اگر از آنها خوشت نمی آید، بچه های امنیتی هم تحریکات خوبی را بلدند. بعد در حالی که در بالای گام میزد گفت نمیخواهم زمان زیادی را برای تو خرج کنم. من به سرعت پاسخ میخواهم. حال اگر دوستداری زمان بیشتری خرج شود برایت خرج میکنم. اما هنوز برنامه های بسیاری در پیش رویت است. می توانم از بیزه هایت آویزانت کنم یا برای مثال داغت کنم نشانه دارد کنم یا انگوشانت را ببرم یا اینجا عمر و جان و هستی تو در اختیار من است پس بهتر است پاسخ دهی عامل تحریک را مطرح کن و در امان بمان ناصر همکنون در انتظار توست تسلاپام آرامش آسایش آیا اینها را نمی خواهی؟ سجاد کلافه و دردمند گفت اما به خدا هیچ از تحریک نمی دانم هرچه شما می گویید درست است حق از آن شماست شما بگویید تا من هم بدانم پیدر در حالی که سینه را صاف میکرد در برابر صندلی شکنجه سجاد نشست و آرام و شمرده شمرده به او گفت خب حالا جای صحبت داری. می توان با تو موضوعات بسیار را مطرح کرد. برایت داستان خوبی نوشتم. اگر درست و به جا رعایت جاه کنی، به درجات بالایی، به جز آرامش نیز خواهی رسید. فردای همان روز دقیقاً فردای همان روز تظاهرات و بعد از ظهر شوم بود که سجاد در سالن اجتماعات بر روی صندلی نشانده شد. همه مجانین و انقلابیون محیط را پر کردند، تا به حرفهای او گوش دهند سجاد شمرده شمرده و دنبالدار شروع به سخنگفتن کرد ما عوامل دشمنان و بیگانگانیم ما دنیا و دارالمجانین را فروخته و خود را در اختیار دشمنان گذاشته ایم در همین بین بخشی از مجانین به سرکردگی ناصر فریاد زدند خیانت خیانت خیانت با اشارت دست حضرت همه ساکت شدند و سجاد ادامه داد ما به همه ارزش ها پشت کردیم و مزدور دشمنان شدیم. آنان قصد نابودی جهان ما را دارند و واموسیبت ها که ما در این ننگ به آنان پیوستیم تا جهان پرارزش و والایمان را نابود کنیم. دوباره همان جمعیت پیشین به همراهی دیگرانی از مجانین فریاد زدند.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 ای خورشید عالم تا، ای پادشاه جهانیان، ای پروردگار مردمان، اینان خبت کرده و خود را فروختند، اما حال که تقاضای عفت کردند، بخشش ملوکانه خود را شامل حال اینان کنید. در همین حال با چشم و ابرو به سجاد اشارهی کرد تا تقاضای اف کند، اما سجاد در جهان دیگری سیر می کرد. با این دنیا و این نمایش فرسنگها فاصله داشت پیدر چسبیده به او ایستاده و ناگاه حضرت داد سخنداد آری ما از زشتی و مزوری آنان با خبریم اما بخشش از آن خدایگان است و ما به پیروی از جایگاه والای خداوندی و بخشش ابدی او را خواهیم بخشید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 حضرت داوود پروردگار آلمیان است او این را گفت و جماعت فریاد زد یا داوود یا خدا یا داوود یا خدا پرونده سجاد این گونه بسته شد و ادامه نیافت اما آرمان به حسب و زندان در آمده بود و پروندهش از ها رفت زیرا هیدر تمام حواس را معطوف به سجاد کرد و با این اعترافگیری نمایش بزرگی را روی صحنه برد و به کلی خاطرش از آرمان پاک شد آرمان و پروندهش به اصرار جواد به دستانش افتاد و او را برای اعترافگیری به سلول انفرادی سپرد و بعد از چندی به واسطه مشغولیت های بسیار باب کارگاه کفشدوزی او را از خاطر برد و به درازای روزها و ماهها در سلول انفرادی ماند. و در حبس دوران گذراند تا باز به جایی ندا و صدای او از اعماق زندانها شنیده شود. کتاب دارول مجانین نیما شه بخش پنجم روزهای دارالمجانین در شرف گذشتن بود و کم کم زمان بزرگ داشت انقلاب با شکوه فرا می رسید. هر دستهای در حال تدارک برنامهای بود که در برابر انقلاب حضرت بالا و حضرت داوود روسپید شود و این ارزش والا را قدر بدانند روزها یکی پس از دیگری میگذشت تا روز موعود فرا رسد روز پیروزی انقلاب شکوهمند از گوشه و کنار دارالمیجانین مجانین مجانین به سرکردگی بزرگانی بران بودند تا حق این مطلب بزرگ را به جای آورند و جایگاه رفیع این پیروزی را جشم می‌گیرند سرآخر روز موعود فرا رسید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 از دو سمت دو گروه مسلح و قدرتمند و باشکوه رژه رفتند یکی به فرماندهی حیدر نیروی امنیتی دارالمجانیم به حساب می‌آمد با لباس‌های متحدالشکل اسلحه های مدرن و باشکوه اهم از باتوم شک الکترونیکی گاز اشکاور اسلحه سوزنی و برد بیشتر از 100 متر ماده بیخوشی و غیره در برابر آنان نیروی تازه تأسیس برآمد که متحد و شکل دیگری به تن داشت با اسلحه های تازه و نو که مثالش در دارال مجانین میشد، دیگر خبری از تفنگ سوزنی نبود این بار در اختیار این ارتش منظم تفنگ های سنگین گرم قرار داشت که به واسطه تجارت آزاد توسط جواد خریداری شده بود او به ارتش تازه حضرت رنگ و بوی تازه ای داده بود و وظیفه اش صدور انقلاب و دفاع در برابر دشمنان خارجی بود آنها رژه هماهنگی رفتند و در برابر حضرت داوود سلام نظامی دادند با پاچسوندن و در انتها دستها را به آسمان بردند و فریاد زدند یا داوود یا خدا این شکوه دو جانبه در برابر دیدگان مجانین و انقلابیون مدهوش کننده بود و چشمان را به خود خیره می کرد بعد از سفارایی نظامیون و معرفی این نیروی تازه وارد دارال مجانین که در طول همین مدت کوتاه و جواد به دستور داوود پایریزی ریزی شده بود نوبت به حسن رسید حسن به همراه جمع کثیری از زنان و مردان مجانین وارد سحن انقلاب شد و در برابر دیدگان همه نمایش های بیشماری را روی صحنه برد نمایش هایی از شکوه و عظمت و اختدار انقلابیون در جنگ هفت روزه بعد از آن در باب شکوه و عظمت انقلاب که این بار بیشتر نمایشا جز تجلیل کوتاه از جایگاه حضرت والا بیشتر محفریتش در باب و عظمت حضرت داوود بود حتی چند نمایشی درباره آن فتنه شوم اخیر هم روی پرده رفت و جماعتی را به وجد آورد. در باب کارهای مخفیانه دشمن و کارهای وحشتناک آنها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 نقاشی‌های با شکوهی را در برابر دیدگان همگان به نمایش درآوردند. نقاشی‌های ای از بزرگی و شکوه انقلابیون از روزهای جنگ از مبارزه و ایستادگی از روزهای انقلاب از حضرت والا و تمثیل‌های بیشمار از حضرت داوود پیکره‌هایی که از سنگ تراشیده شده بود و چهره قدسی و نورانی حضرت داوود را تصفیر می‌کرد تصاویر شکل‌های بسیار داشت گاه حضرت داوود را به نمای فرشتگان با بال در گاه او را در حالی که دست بر آسمان کشیده و گاه در حالی که پره زمین را به دست گرفته است. گاه تصویری از او به نمایش در در حالی که لباسهای جنگی بتن کرده و در جنگ در برابر دشمنان ای ساده است. و گاه در حالی که به یکی از مجانین کمک می کند و دست نوازش به سر آنان می کشد. یک به یک نقاشی ها و تمثیل ها در برابر دیدگان همگان نقش بسته شد و همگان دیدند که چه کارها محمد به همراهی گروه تربیت شده اش کرده و شعارهای یادا یا خدا در سراسر دارالمجانین مجانین تنین انداخت در آخر نوبت به ناصر رسید ناصری که روزهای بسیار بعد از آن واقع زمان صرف کرده بود و در میان مجانین زمان سپری کرده بود تا برای این روز بزرگداشت مراسم در شنی را پدید آورد. بیشتر این ایده در روزی که در کنار یکی از بیماران بود در ذهنش شکل گرفت. آنگاه که برای اولین بار زینب را دید. زینب دختری آرام و گوشگیر بود. وقتی در یکی از روزها ناصر برای دیدار با او به اتاقش رفت تا با او در باب حضرت والا و بزرگیش اثرات والای تسلاپام و انقلاب شکوهمند صحبت کند. متوجه شود در خلوت خود شعر میگوید گاه شعرها را بر جان و تن خود می نویسد همین جرقه باعث اتفاقات امروز در این جشنه با شکوه شد زینب به روی صحنه رفت و این آغاز کرد ای نور بتابان که همه تشنه برانی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 و بزرگی اما محفر بیشتر اشعاری که زینب خواند و پس از آن چندی دیگر از مجانین آنها را خواندند، حضرت داوود و بزرگی و جایگاه والای او بود. این اشعار یک به یک خانده شد و مراسم به پیش رفت. به آخر مراسم حضرت تنها برای گروهی لب سخن گشود آن هم همین گروه ناصر و اعضایش بود. داوود به آنان اینگونه فر بود. آفرین!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 مدام تسلاپام مهمان جان شد و سرآخر این روزگاران آن بود که اولین جمله زینب اینگونه باشد داوود ای جان و جهان را خدای من و تو به در خانه تو عشق و جهان من و تو ناصرین را شنید و به هر آنچه میخواست رسید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 و باید که جایگاه رفیع آنان را پاس بداریم که به ما انسانیت توفه داده اند ما را به این مقام بالا رسانده اند و باید به کنار آن به فکر پیشرفت و آبادانی نیز باشیم هنوز از حرفهایش را تمام نکرده بود و میخواست بیشتر ادامه دهد. که از سوی هیدر فریاد یادا بود یا خدا بلند شد و جماعت به تبعیت از او ادامه دادند انقدر ادامه دادند تا اسخر نشست و حضرت داوود دستانش را به آسمان تکان داد همه مبهوت حرکات دست او بودند که لب به سخنگ شد از همه عزیزان و دوستان سپاسگزارم که چنین مراسم با شکوهی را ترتیب دادند این نهایت شکوه و سربلندی ما انقلابیون است که پاسداری چنین انقلابی را می‌کنیم.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 و به آخر به شعار یا یا خدا خاتمه یافت و این روز با شکوه انقلابیون نیز به پایان رسید. همه در حالی که ای را در این روز با شکوه از اجرا تا تداروکات و تمیزکاری ها بر عهده داشتند به اتاقها و سلولهای خود بازگشتند و به میان تخت ها نام داوود را خواندند. برخی مدام در خواب هم تکرار میکردند کردند یا یا خدا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 و به کسی بی فریاد یاداود یا خدا تسلاپام نمیداد. و حال در حالی که همه در اتاقها خواب بودند، داوود در اتاق خوابش بر روی تخت با شکوهش صدای جسگریخته‌ای را میشنید که مجانین نام با شکوه او را در کنار نام خدا فریاد میزدند. با شنیدن این آوای لذت بخت، چشمان را بست و خیشتن را بر تمامی آسمانها.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 کتاب دارول مجانین اثر نیما شهزواری بخش ششم روزگار دارالمجانین در پی گذر بود و حوادث یک به یک از پس هم می گذشتند دنیای تازه ای در دارالمجانین مجانین برپا بود باید که کارها رونق بیشتری گرفت باید که این سرای انقلابیون پیشرفت رفت می کرد و زبان زد همگان می شد.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 و پس از آن به آرزوی بزرگ زندگیشان دست پیدا کنند. دو جبهه مختلف در راه این قدرتمندتر شدن در برابر آنان بود که یکی را اسخر و دیگری را داوود رهبری کرد داوود باور داشت که باید از نظر نظامی و امنیتی دارالمجانین هر روز قدرتمندتر شود و با تکیه به این قوا انقلاب شکوهمند را در جهان نشأ دهند. و در برابر او اسخری وجود داشت که با همه وجود باور داشت باید از نظر اقتصادی دارالمجانین قدرتمند شود و با تکیه به این بنیه انقلاب را به سراسر کشور صادر کنند این دو نگرش به قوت در کنار هم جاری و ساری بودند و کسی از دو طرف مخاسمه در کار دیگری خلالی وارد نمیکرد. زیرا هر دو باور برای این موضوع متفق الغول بودند که راه رسیدن به صادرات انقلاب در قدرتمندی است که با هر دو راه قابل دستیابی است و چه بهتر که این دو مسیر متضاد در کنار هم به پیش روند. حال در این دارالمجانین مرتبط با جهان بیرون راه ثروتمند شدن باز شده بود و همه با کارگاه‌هایی که دایر کرده بودند سعی در رونق این اقتصاد داشتند. اسخر در این زمینه بسیار کوشا بود.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 بیشتر زمانش را با مردمان بیرون از دارول مجانی می گذراند. گاه از آنان راه تازه می گرفت. گاه برای فروش محصولاتش چکوچانه می زد. گاه در پی پیدا کردن ابزار تازهای برای رونق کارگاهش بود و خلاصه هر بار به طریقتی اولا در پی آن بود تا این اقتصاد تازپا را گسترش دهد.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 مجنون که دست و پایش را گم کرده بود بدون هیچ تفره رفتنی سر راست سر موضوع اصلی رفت و گفت اسخر خان من خانواده متمول در بیرون دارالمجانین دارم این را تازه به خاطر آوردم اگر بگذارید تا از دارالمجانین خارج شوم قول میدهم از آنها پول بسیاری بگیرم و تقدیم شما کنم اسخر با شنیدن این حرفها به یکباره خشک بر جای ماند و با استرس بلند شد به سمت درب ورودی رفت درب را باز کرد و به بیرون نگاه کرد بعد از آنکه مطمئن شد کسی بیرون درب نیست و حرفهای آنها را گوش نداده نفس راحتی کشید و عرق پیشانیش را پاک کرد بعد دوباره به روی سندلی خود برگشت و در حین نشستن به مجنونی که سرپا در برابر میز او ایستاده بود چشم دود بعد محکم و استوار با صدای خشن رو به او گفت مرد که دیوانه با خود چه فکری کرده ای؟ مرا چه فرض کرده ای که چنین پیشنهاد بیشرمانه ای به من می کنی؟ می اگر حضرت داوود و یا هیدر از این موضوع چیزی بدانند چه به روزت خواهد آمد؟ مجنون در حالی که پایش را گم کرده بود با دست گفت سرورم میدانم اما شما فهمتر و بزرگتر و والاتر از همگان در این دار هستید. شما سرآمد همگان هستید و همه بر این دانش شما مترفند به باهوشی شما قسم می‌خورند. از اسخر بادی به قبقب انداخت و با میمیلی گفت چاپلوسی بس است تو از کجا می دانی که خانوادت کیست هیچ کس در این بیغوله از گذشتش هیچ به یاد ندارد تو چگونه به چنین معانی در گذشتت رسیدی مجنون در حالی که دست بر سرش گذاشته بود و سرش چا می رو به اسخر گفت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 نه حضرت دانا هیچ چیز جز خانواده ام را به یاد نیاوردم اسخر در حالی که گونه هایش سرخ شده بود با لبخندی که به لب داشت گفت چقدر میتوانی به دارال مجانون کمک کنی مجنون با بیتابی و شتاب به سرعت گفت هرقدر شما امر کنید هرچقدر شما بخواهید هر چه دستور شما باشد به دیده منت خواهم گذاشت از خر در حالی که دست دست پولها را می شمرد در حال تدارک بیرون بردن تعدادی از مجانین بود با خود فکر می کرد و نقشه می چید. برای خود همدستان بیشمار قائل می شد و برایشان هایی در نظر می گرفت هرچه بود باید این راه را به خاتمه می چرا که میدانست درآمد در آمد بیرون بردن یک مجنون از دار به اندازه یک سال کار کردن و سوددهی کارگاهش در این بیقوله است پس هرچه حمت داشت به کار بست و در این راه پیروز شد. تا به واسطه این کسب تازه قدرت دارول را فزونی دهد و یک کتاز دارول شود. در این راهروی تازه دارول مجانین هرکس نقشی را بازی میکرد و هرکس برای خود از این نمد کلاهی میساخت. حسن هم از این قائله عقب نماند و راه کارهای خود را به پیش گرفت. در این رفت و آمدها در این آمد و شدها بود که برای اولین بار با یکی از دوستان پیشین ناصر آشنا شد. او روانپزشکی حاضق بود. در شهر همه او را می شناختند و او را به عنوان نابغهی در حرفه خود قبول داشتند. او مبده و مخترهی در فن خود محسوب می شد و هر بار درمانهای تازهی پدید می آورد. گاه داروهای تازهی می ساخت. گاه متودهای درمانی و در این حرفه حرف اول را در کشور می زد. این روان پزشک بزرگ و توانا که از دوستان سابق ناصر بود روزی توانست با حسن در ارتباط قرار گیرد و خاسته را با او میان بگذارد خاسته ای رک و سریح با سودی دو جانبه برای هر دو طرف معامله آری این معامله پایا پای بود در سوی پول های بسیار قرار داشت که می توانست به قدرت دارالمجانین مجانین و در عین حال به قدرت حسن در دارالمجانین مجانین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 و دیگران هم موضوع حائز اهمیتی به حساب نمی آمدند حتی آن بیمارانی که به فرجام های گوناگون می رسیدند هرچه بود تفاوتی نداشت که آنان در راه اطلاع و بزرگی دارال مجانین و والاتر از آن انقلاب کبیر جانبازی می کردند درست مثل آن شهدا که در جنگ چند روزه و یا پیش از انقلاب به راه آرمان های حضرت والا جانبازی کردند هیدر قدرت بزرگ دارالمجانین مجانین محسوب شد و این قدرت برایش ثروت بسیار هم میافرید. گاه باج‌های بسیار از خواص این جامعه دریافت می کرد. برای سکوت، برای ازیاد بردن. گاه با بزرگانی رو در رو شد که به واسطه خبتی حاضر بودند همه دنیایشان را به او ببخشند و در برابرش تا پایان عمر مسکوت بمانند.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 پس همین گمانه ها را بیشتر میکرد کرد که هیدر رسیدن به این مقام را به مزایده می گذارد و از این راه کسب درامد تازهی برای خود و بالاتر از خود برای قدرتگیری دارول مجانین و انقلاب کرده است. فرای این راهها ها هیدر راههای دیگری هم برای کسب درآمد در پیش داشت. تقریبا هر کار در این دارول به ازم و اراده او به پیش می رفت. هر مجرونی که از در دارالمجانین المجانین بیرون می شد چان که در ازای پول به آزادی رسیده بود و چان که در ازای پول به اسارت روانپزشکی حاضق درآمده بود باز هم بیشتر و بیشتر هر که در این دارالمجانین المجانین میخواست تا کاری بکند یک سر کردهش ناخداگاه به هیدر می رسید و هیدر با دریافت حق و این مسیر را برای او هموار می کرد هرچند برایش مهم بود که کار در پیش چیست اگر آن کار به منافع حضرت داوود و انقلاب لطمه‌ای نمیزد، حقا با دریافت مبلغی راه را باز می‌گذاشت تا به قدرت دارالمجانین با کسب ثروت افسود شود و خود در این راه قدسی نقشی بازی کند و به راه بزرگی و داشت انقلاب مُهره‌ای با ارزش شود. جواد قدرت اصلی برای اهداف مرزی بود. او به واسطه فرمان داوود این مقام را کسب کرده بود. و باید با هر راه که شده انقلاب را به بیرون صادر می کرد به سوی دار این های دیگر می رفت، به آنان اخبار می آنان را تحریک می کرد به آنان کمک های نظامی و مادی می و در کنارشان بود تا به این انقلاب شکوه بند بپیوندند و در کنار این آرمان بمانند بیشتر درآمد جواد از راه بودجه هایی بود که برایش اختصاص داده می شد داوود بودجه های بسیاری را برای این صادرات در نظر می گرفت و از دادن این پول ها به جواد دریغ نداشت. زیرا که بالاترین ارزشها در برابرشان همین صادر کردن انقلاب بود. این صادر کردن انقلاب آنها را سر ظهخ می آورد. به آنان بهانه زندگی کردن میداد تا با از راسخ در این کارزار قرار گیرند و راکت نباشند. جواد مالهای انبوه را دریافت می کرد و هر بار از بار پیشین به قدرت نظامی و قدرت مادیش افزوده می شد. تا نظام هر روز قدرتمندتر از دیروز شود. اما تمام های جواد به همین جا خلاصه نمی شود. جواد معمور بود تا به فضای بیرون دسترسی پیدا کند و گهکاه به نبرده با دشمنان برود. در این نبردها پیروز شود و هر چه مال از آنام به دست می آمد غنیمت جنگی او و دارالدسته اش بود پس این هم راه دوم درآمد جواد به حساب می‌آمد در کنار اینها جواد هم در بخش داخلی دارالمجانین قدرت و نفوذی داشت با این نفوذ به مال و مکنتی رسیده بود درست است که این رسیدنها هیچگاه با هی در قابل مقایسه نبود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 در این وادی قدرت طلبی همگام را به پیش نهاد تا برای خود تاج و تختی فراهم آورد. او برای اولین بار در این راه پرفراز و نشید دست به وارد کردن مستین زد. مستین این زهر حلاحل، این دشمن انسان و انسانیت، این یاقی کننده روح مجانین و این بزرگترین دشمنها که از دیرباز به زبان حضرت والا و حال از زبان حضرت داوود بارها شنیده شده بود.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 و به هر کس که از آن میداد ساعتها در کنارش برایش از والا بودن حضرت انقلاب هم میگفت و برای از بین بردن اثر مسین چند برابری تسلاپام هم تجویز میکرد در مجموع هراس داشت از اینکه بخواهد بیش از حد مسین در اختیار مجانی بگذارد اما فروش همان مقدار محدود مسین هم برای او درآمدی کسب کرد تا در این دایره قدرت از دیگران عقب نماند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 اما محمد یک راه دیگر برای کسب ثروت داشت. او کارهای حکومتی و نزدیکی به انقلابیون را به مجانین می فروخت. برایشان راهی باز می کرد تا به مستتهای حکومتی دست پیدا کنند و از این راه هم نیروهای تازه وارد تزریغ نظام می کرد و هم در عین حال درآمدی برای خود و قدرت گرفتن انقلابیون دست و پا می کرد. او مسئول فرهنگ این انقلاب کبیر بود و باید که گروه های بسیاری را پرورش می‌داد تا هنرهای انقلاب را برای صدور این ارزش پررنگ و قدرتمند کنند. برخی در مجانین باور داشتند که او جایگاه‌های هنری در مجانین را نیز به بهایی در اختیار مجانین می‌گذارد تا زودتر به دریچه‌های حکومتی راه پیدا کنند. تمام هنرها در خدمت نظام بود.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 جایی که داوود و دار و دستش بیشتر از همه می دانستند جایی که آنان باید همه را به زور و جبر به آن میرساندند و در آن به آنان زندگی می بخشیدند حال آنکه زندگی این دنیای آنان را تلف کرده و به بدبختی سوق داده اند چه ارزش که جهان حقیقی و راستین در سرای دورتر از آنجا بود در جایی که قابل رؤیت نبود و هزاران بار از این جهان بیشتر زیباتر و طولانی است دارول مجانین از همیشه کسیفتر، بدبوتر و بدروختر شده است. نه تنها هوای آزادی نیست که همان هوای درونی را هم به واسطه کارگاه ها از دست دادهاند. بو و دود همه جا را پر کرده است. دیگر ناصر برای درمان به کسی سر نمیزند. او تنها وظیفه دارد تا برای مجانین موئزه کند. تنها آنان را به تسلاپام و خوردن آن به شوراند. اگر ساعت ها از درد به خود می کسی نیست که فریاد رسان باشد. ناصر کارهای مهمتری دارد. هوای نامت بو. نبودن هیچ تفریح. هماره همان تکرارها، همان نمایشها، همان آوازها، همان شعرها و همان تصویرها، همه و همه تصویر حضرات است. همه از انقلاب می گویند. از جنگ، از پایمردی و از ایستادگی،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 اما حال باید ساعات بسیاری را به کارگاه ها بروند و کار سخت انجام دهند آن هم به بهایی ناچیز و اندک که همه اش در همین دارالمجانین مجانین هزینه می شود گاه به واسطه خبتی باید در اختیار حیدر قرار گیرد گاه به واسطه نیاز به ناصر داده می شود و هر کس دندان تیز کرده تا آن را به دست آورد فرای اینها هیچ از غذای خوش و هیچ از ساعات استراحت درست خبری نیست و باز هم نبود فضای باز همه را بیمار و کلافه کرده است مجانین دیگر هیچ از خورشید به یاد نمیآورند نمی توانند تصویری از آن در دل هم بکشند و باید در این دارال مجانین از هرچه بیرون و به دنیاست وداگوویند اما دلها برای دنیای دو دستها میتبد با آنکه در یکی از همین روزها در جشنی که به تازگی برپا شده بود برای بزرگ داشت از جاه و مقام حضرت داوود مجانین به سحن آمدند و فریاد زدند. به آخر فریاد مرگ بر خیابانها سردادند. گفتند مرگ بر هر چیز که بیرون از دارول است. اما بیشترشان به دل تصویر ماه را نقش دادند. با خورشیدش بازی کردند. به یاد ستارگان عشق ریختند. وانگاه که فریاد مرگ بر هر چیش که بیرون از دار مجانی را سر میدادند، به دل ماه و خورشید و ستارگان کوه و دریا همه را به قلم گرفتند که آنها قابل تکریم و معنای زیبایی بودند اما این جماعت باید به میان سه می و در کنار هم فریاد یا یا خدا سر تا به انتهای مراسم داوود با بادی به قبقب در حالی که هیدر دنباله ردایش را به دست گرفته و به اتاق می رود، همه از انقلابیون و مجانین در برابرش به خاک بیفتند و کرنش کنند کتاب دارول مجانین اثر نیما شه بخش هفتم از بعد از آن اتفاق بعد از ظهر شوم و آن تظاهرات یک باره مجانین دیگر خبری از اعتراضات در صحن دارول مجانین دیده نمیشد. شرایط در آرامش نسبی بود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 شکسته و پژمرده از صبح تا شام زمان را به منگی می گذاراند. بیشتر اوقات به افقی در دو دست تااخیره میشد و هیچ از جهان پیرامون نمیفهمید. گویی در این دنیا و میان مجانین سیر نمیکرد حتی دارول مجانین هم به همان شکل همیشگی نمیدید و همه چیز جهان برایش حال از ابهام و توهم داشت. سرنوشت سجاد به سکوت و برهوتی از گفتن و شنیدن ها بدل شد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 در مراسم شعرخانی به حضور حضرت داوود می رسید و آنچنان از مقام قدسی او داد سخن می داد که همگان مرتبه والای او را درک می کردند. باور داشتند که این قدرت سرودن از سوی خدا به زینب تنفیز شده تا متح حضرت کند و همگان را از این مقام والا باخبر سازد. گاه شعرهای زینب مبدل به تابلوهایی با غاقهای چوبی شکیل می شد و به سرتاسر تا سر ادار نس می گشت. گاه فرد زبان خواص و عوام بود و آن را با خود تکرار میکردند. گاه در ابتدای عرایض انقلابیون و در خطابه ها از آن استفاده می شد و به هر حال زینب از چنان جایگاه رفیعی در نظام بهره می برد که بسیاری حسرت آن جایگاه را داشتند. دوست داشتند خودشان را تا آن حد به دل حضرت داوود جادهند دهند و از برکات این محبت و دوستی بهره برند.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 به نوعی دست راست او محسوب می شد هر بال تمثیل تازهی میکشید و می تراشید و نگارهای بسیار از حضرت داوود، از شکوف و بسیرتش، از نگاه به افقش از آینده روشن و هزاری عناوین بیانتهای انتهای دیگر در کنار اینها گاه از محمد هم تمثیلهایی میکشید او را به جایگاه رفی می رساند اما این تصاویر بیشتر در محافل خصوصی و به نزد هنرمندان حکومتی به نمایش گذاشته میشد تا در میان عموم مجانین تمثیلها و های ساخته به دست او در سرتاسر دارالمجانین نسب میشد گاه بعضی در برابر این تمثیلها شکوه و عظمتش به خاک میافتادند و آن را پرستش میکردند تصویر روح قدسی حضرت والا این بزرگ مرتبت این روح بالی تعالی این شروع کننده قیام و انقلاب، این ریشه و اصل تمام باوربندی ها، تمثیل های او ساخته می شود. به سرتاسر تا سر دارول مجانین می و بسیاری از مجانین در برابرش به خاک می نشستند. در کنارش رهبر باخرت و با بسیرت این یگان منجی مجانین پیکره های با شکوهش نهست می و مورد تکریم قرار می گرفت. و حسین در کنار محمد هر روز پیشرفت و جایگاهش مورد رشک بسیاری در سرتاسر سر مجانین قرار میگرفت. اما آرمان آرمان بعد از آن اتفاق و آن بعد از ظهر به هست درآمد به زندان انفرادی نشست و همه روزها را به تنهایی فکر کرد به همه چیز دنیا چشم دوخت به روزگار در اسارتش به روزگار پیشترش به مجانین به مجانین، به انقلاب و انقلابیون، به حضرت داوود، به حضرت والا. اما مصیبت آنجا بود که هیچ چیز از پیشترها از اینها را به خاطر نمی آبرد. هیچ چیز از آن دورترها در برابرش نبود. همه چیز به دست فراموشی سپرده شده بود. همه چیز تیره و تار بود و این ندانستن او را به دیوانگی می رساند. کلافه می شد، گاه سر به دیوار می تا شاید به واسطه این ضربات چیزی از گذشته را به خاطر آورد اما بینتیجه و بی سمر بود چرا که او هیچ از آن دورترها به یاد نداشت اما به درستی به یاد می آورد که در این دارالمجانین مجانین چه به سر او و دیگر مجانین می آید به خاطر می آورد که چگونه همه به بند در جرأت اند جورت هیچ کاری را ندارند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 نباید دوباره سر رو آورد تا آنها به گرده ها سوار شوند و هر آن به خیال دارند از آنان طلب کنند از آن روز که او را به حس درآوردند، همه او را از خاطر بردند هیچ کس از او هیچ به یاد نیاورد حتی سجاد هم در کنار او بود حتی او که آرمان را بزرگترین حامی خود در آن بعد از او دید هیچ از او به یاد نداشت او را به کلی فراموش کرد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 اما وعوه اتفاقاتی برای دارالمجانین و وابسته به مسائل خارجی او را به کلی از مسئله آرمان دور کرد و او را به هیچکس کس نسپرد. ناصر هم مأمور نبود تا به او تسلاپام بدهد. کسی به او کاری نداشت از همین رو بود که آرمان به تنهایی و در سکوت بدون هیچ مزاحمی چون تسلاپام توانست ساعتها و روزها فکر کند و همه چیز را در برابر دیدگان بکشاید.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 هوای مطفون و خفه در دارالمجانین برایش مبدل به هوای آزاد در جنگل ها شد و با استشمام این هوا با نسیم در خیال با نور خورشید ساخته به ذهنش از سلول بیرون آمد به بخش منتقل شد حالو آزاد بود حالو دوباره به میان مجانین بازگشته بود و می توانست همه چیز را از نو سرآغاز کند بعد از آزادی هر روز به نزد ناصر برده شد ناصر به کوی می‌نشست و ساعتها از بزرگی انقلاب به حضرت داوود می‌گفت. می‌گفت می, گفت. می گفت که اگر او نباشد چه روزگاری خواهیم داشت. از آن تیمارستان ملعون در دور دستها و امنیت از بین رفتهاش می گفت. به آرمان هشدار می‌داد که اگر دست از پا خطا کنین به سرنوشت آنان محکوم خواهیم شد و هر بار داستان تازه ای از انقلاب برای او شرح می‌داد. به آخر جلسات هم همچند تسلاپام از جیب خارج می کرد و در اختیار او می گذاشت و آرمانی که با ولع بسیار آنها را به دهان می برد. تنها کافی بود تا ناصر چند گامی از درب اتاقش فاصله بگیرد تا او هرچه خورده را بیرون بریزد. او در این مدت از شر تسلاپام آسوده بود و فهمیده بود که بدون دربند بودن به این مخدر و افیون می تواند بهتر فکر کند. پس در کنار همه احتا به خود قول داد که به هیچ روی تازنده است دیگر تسلاپام نخورد. بعد از اتفاقات تازهی که در دار مجانین رخ داد و هر کدام از انقلابیون و حکومتیان به جوز کارهای سابق دست به عناوین دیگری برای به آوردن پول زدند نارضایتی میان مجانین بیشتر و بیشتر شد. دلیل این نارضایتی ها اکثرا به باسطه تعدادی از مجانین بود که با در اختیار گذاشتن مبلغی به نزد ناصر دسترسی به مسین پیدا کرده بودند. چندی از مجانین توانسته بودند با این نزدیکی و خوردن مسین، حسای تازه‌ای به جامعه و دنیایشان داشته باشند. حال آنها به موضوعاتی اشاره می کردند که در دل مجانین هم وجود داشت، اما کسی جرأت گفتنش را نداشت. شاید مسین این جرأت را به آنها داد. و یا شاید این مسین چشم آنها را به این اتفاقات بیشتر باز کرد. یکی از آنها که آتشی تند در این عمو داشت مهدی نام داشت. مهدی یکی از کسانی بود که به ناصر نزی شد و با در اختیار گذاشتن مبلغی توانست به تعدادی مسین دست یابد. او مسین ها را خورد و هر بار سخنه تازه‌ای به مجانین زد. یک بار در خلوت و برای یکی از همبندی هایش گونه گفت این حکومتیان دارول مجانین را به فساد کشیده اند. ناصر قرص های ممنوعه میفروشد، اسخر مجنون به بیرون میفرستد، حسن ما را معامله میکند و هر کدام در این آبشخور برای خود های پر آب جمع کرده اند. یک بار دیگر در جمعی چند نفره از مجانین گفت: ما نیاز به هوای تازه داریم، ما باید ساعتی را به هواخوری بپردازیم و یک روز دیگر در جمعی بیشتر از مجانین فریاد زد: ما آزادی می خواهیم. ما نیز باید به تفریحاتی که آنان دارند از جمله جعبه‌ی جادویی و رادیو دسترسی داشته باشیم ما برای ادالت و برابری انقلاب کردیم و حال چه برداشت کرده ایم. او هر بار به چهره‌ای و با حرفهایی تازه به میان مجانین میآمد و این گونه سخن می‌راند هر چند که او تنها مجنون این گونه در فضای مجانین نبود اما بیشتر از بقیه به چشم می‌آمد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 تا به کی باید در این اسارت بمانیم و حتی هواخوری از ما دریغ شود فساد حکومتیان ریشه ما را خشکانده و هر روز به تعداد این سخنان و جمع معترضان افسوده میشد ناگاه در یکی از روزهای تاریک دارالنجانین جرقه ای آغاز شد و یکی از همین مجانین معترض که اتفاقا مهدی بود به سحن آمد و فریاد زد ما طالب حقوق از دست رفته ایمان هستیم او این فریاد زد و جماعتی از مجانین شروع به شعار دادن کردند. شعارهای بسیاری به گوش می رسید اما عجیبترین و پرقدرتترین آنها شعار بازگشت مهدی به حکومت بود. مهدی تازه ظهور کرده را کسی خطاب نکرد که آنان از همان رئیس رؤسای سابق بر دارال یاد می کردند. بخت بسیاری از این شعار پرنگیخت شد از جمله انقلابیون و به ویژه حضرت والا هیدر به همراهی جباد با گروه های بزرگ و تا دندان مسلح وارد صحن دارول مجانین شدند. همه را تارمار کردند و شروع به قلغم کردن آنان کردند. به پیش میرفتند، هرکه در برابر بود را نقش زمین می کردند. جماعت را متفرق کردند و اصل را دستگیر و قائل خاموش شد. اما همه ماجرا به همین جا ختم نشد. دوباره به فاصله چند روز تعداد دیگری از مجانین شروع به فریاد در صحنه دارل مجانین کردند. شعار دادند. خانه را شستیم، برگرد توی مهدی. جای تو چشم است، برگرد توی محتی. شعارها یک به یک اضافه می شد. گاه مجانین فریاد میزدند. خونمان را شیشه کردند و به ما می فروشند این همان خونه است. ای وای از شما. شعارها بسیار بود از همه چیز و خواسته هایشان می گفتند. از فساد حکومتی، از آزادی های از دست رفته، از بازگشت حکومت مهدی و چه که به فکر مجانی می رسید. اینها را گفتند و حضرت به ایوان آمد و فریاد آتش داد. چهره سرخ و بر بود، از چشمانش خون میچکید. چکید، با صدای بلند روبه جواد و هیدر فریاد زد، بکشید این اشرار پست را. این فرمان آتش کافی بود تا جواد به همراه یارانش تفنگ های سنگین و گرم را برون کنند و مجانین را به گلوله ببندند،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 در این تظاهرات جمع کثیری از مجانین کشته شدند و تعداد بسیاری هم به اثارت درآمدند از مشهورترین زندانیان آرمان و محدی بودند محدی در اعتراضات روز نخست و آرمان در تظاهرات خونین دوم به اسارت درآمد و تعداد کشته شدگان از دو تا هشتاد نفر تخمین زده میشد دو نفر را هیدر اعلام کرده بود که از آن داشت یکی به دست عوامل خارجی کشته شده و حیدر خود شخصا همان خاطی خود فروخته و جاسوس را به صدای عملش رسانده است. و آمار هشتاد کشته هم توسط برخی از مجانین میان دیگران پخش می شد. اما چه که بود بوی خون تمام فضای دارال مجانین را پر کرد.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 همه به دور صندلی که حضرت داوود نشسته بود به زمین نشستند و حیدر این گونه جلسه را شروع کرد. برادران، همراهان و هم رزمان، امروز گرده هم آمده این تا در برابر حملات دشمن ایستادگی کنیم. این دشمنان آمده تا دنیای ما را به هلاکت و نابودی برسانند. آمده اند تا دنیای ما را به نیستی و نابودی برسانند. آمدند تا همه ارزش هایی که ما در راهش خون داده ایم و شهید ها به راهش تقدیم کرده را لگدمال کنند امروز روز مبارزه و جنگ است پس باید به پا خواست و در حالی که هیدر چشمانش سرخ شده بود و از گوره در رفته بود داشت حرفهایش را به حالت فریاد ادامه می‌داد که با دست بالا آمده حضرت داوود در میان صحبت خاموش شد حضرت اینگونه فرمود امروز شما را به نزد خود فرا خواندم تا راه حل‌های عملی و اجرایی خود را برای مهار این ها بشنوم امروز نظام و حکومت ما زیر فشار است و این نابودی به معنای نابودی همه ماست در انتظار راه حل‌های جدی و درست شما هستم اسخَر در حالی که سینه‌اش را صاف میکرد رو به داوود گفت: حضرت، من ایدهای برای مهار اینان دارم که آن را در خلوت خدمت شما عرض خواهم کرد. داوود با بیمیلی رو به او کرد و گفت: ما صحبت محرمانه ای نداریم و کسی در میان ما نخودی محسوب نمی هرچه هرچه میخواهی را بهتر از حال بگویی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 تنها همین کارمان مانده است که این جماعت را وقیح‌تر کنیم تا به های داشته و نداشته ایمان بخندند دیگر با این کار چه آب روی برای برایمان باقی خواهد ماند چه کسی از ما حرف شنوی خواهد داشت و در کنار همه اینها با این ضعف نشان داده چگونه می توانیم به آنان حکومت کنیم حسن به یکباره گفت حضرت والا ما به میان میانمان خائنی داریم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 نظرت را بگو ناصر در حالی که عرق سردی به پیشانیش نشسته بود گفت تسلاپام دوای درمان این تقیانگری تسلاپام است حسین گفت مگر تا به حال به آنها تسلاپام نداده ایم. مگر تا امروز این رویه همیشگی ما نبوده است راهکار جدیدی به او اخوی این همان کارهای سابق ماست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 کتاب دارالمجانین اثر نیما شاهسواری بخش هشتم در یکی از روزهای بعدی بود که اسخر وارد اتاق حضرت داوود شد تا با او به همفکری و مشورت بنشیند. در طول این چند روز مدام زمان مورد نظر فرانه می رسید تا آن دو با هم رودر رو در رو شوند و اوقات برای هر دوی آنها پر بود و کارهای ضربالعجلی دستور کار انقلابیون دارال مجانین بود اما به انتها زمان آن فرا رسید تا دو چهره اصلی انقلابی در اتاقی به خلوت با هم نشست کنند و بتوانند راه های تازهی برای روگاروی با مجانین دست و پا کنند اسخر در برابر حضرت کرنشی کرد و این گونه آغاز کرد داود ما باید برای فرونشاندن این موقعیت فکرهای تازه ای را به کار ببندیم راه های سابق گره است. داوود به میان حرفش آمد و گفت نمی این راه کارها را بین دیگران در میان بگذاری تا هم روال کارها زودتر پیش رود و هم بدگمانی را میان آنان زنده نکنی؟ اسخر گفت درست است آن هم راه حلی بود اما من باید در ابتدای این اناوین را با تو در میان میگذاشتم و تو را مطلع میکردم. شاید اصلا نمیخواستی این اناوین با دیگران مطرح شود و یا شاید راه حل دیگری برای عملی شدنشان در پیش میگرفتی. داوود با آنکه بسیار بیحسله بود به اسخر گفت حال زمان در اختیار توست میتوانی از راه کارت با من سخن بگویی. اسخر به سرعت شروع به سخن گفتن کرد. من برای سر و سامان دادن به این اوضاع راه کارهایی در زیر پروراندم. به نظر حقیر، امروز و در این شرایط نابسامان با همان ترفندهای گذشته نمیتوان مجانین را تحت کنترل داشت. باید که با آنان تا حدودی بازی کرد. برای نخستین را باید به تو بگویم که ما نیاز به نیروی امنیتی دیگری هم داریم. این دو نیروی امنیتی قابل رؤیت هستند. و کارایی لازم را برای پیشگیری مسائل ندارند این نیروها تنها می توانند ما را در برابر این اتفاقات پیش آمده مسئول دارند و در ثانی در بعضی مباحث ما نیاز به نیروی امنیتی داریم که همرنگ جماعت باشد تا اهداف ما را پیش ببرد اولین راه کار من برای پیروزمندی به این اتفاقات تازه دایر کردن نیروی امنیتی تازه است در کنار آن دو نیروی سابق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 اسخر به میانه حرفش آمد و گفت مطمئن باش این هزینه ها با چند برابر سود به جیب من باز خواهد گشت و من خود حاضرم تمام هزینههای دایر کردن این نیرو را به گردن بگیرم داوود حرفش را برید و گفت نیاز به چنین کاری نیست انقلاب از پس همه ی خزینه ها بر میآید اسخر ادامه داد وقتی از نیروی امنیتی تازه تاسیس صحبت کردم یکی از دلایلش فرستادن نیروی به میان مجانین بود برای شناسایی ما نیاز داریم تا از میان این ناراضیان یارگیری کنیم ما نیاز داریم تا نیروی به میان آنها بفرستیم تا اخبار داغ آنها را به ما اطلاع دهند از اسرار آنها با ما صحبت کند و آنگاه که خواستیم به آنان راهکاری بدهیم که خود میخواهیم میتوانیم با وجود او چهره های آشوب طلب را شناسایی کنیم میتوانیم کاران را بشناسیم و مطمئن باش به خیلی از خواسته خواهیم رسید. در حالی که داوود ساکت و آرام چشم به لبان دوخته بود، اصخر ادامه داد ما باید تبلیغ کنیم، باید در بوغ و به همگان از خشونت و خشونت ستیزی بگوییم. باید این اصل خشونت را به اصلی برخلاف تمام ارزشهای جاری میانمان بدل کنیم. داوود گفت، اما ما، هنوز نتوانسته بود جملهاش را کامل کند که اسقر ادامه داد ما باید این خشونت را محکوم کنیم و باید چهره موترزان را خشونت طلب تصویر کنیم که پایگاهی میان مجانین پیدا نکنند ما باید این پایگاه ها را قبل از شکگیری و عمومی شدن در هم بشکنیم بدون که نیروهای امنیتی نامحسوس که از دل مجانینند میتوانند ما را در این خشن جلوه دادن معترزین یاری برسانند داود مات و به لبان اصخر چشم دوخته بود و اصخر ادامه داد. در کنال اینها دو اصل دیگر باید رعایت شود. یکی که ما باید مردم را از آینده اینا معلوم بترسانیم. آینده ی بیما یعنی نابودی، یعنی بدبختی، یعنی فلاکت. باید آن تصویر دارالمجانین مجانین سرخ را بیشتر و بیشتر پررنگ رنگ کنیم. باید مجانین بدانند،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 اینها باید آنقدر به فکر روزگار ساده و زنده ماندن خیش باشند که دیگر فکرها را از سر دور کنند. اما داوود این موی باری چیست؟ این فقر را باید تا حدی نگاه داشت که خلاف خود حرکت نکند. اگر آنها را آنقدر فقیر کنیم که یاغی شوند، پرونده بودنمان هم به ملکوت خواهد پیوست. اما نگاه داشتن آنان در فقر و معطوف کردن افکارشان به صفرهای غذایشان راه دیگری برای خاموشی آنهاست.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 چشمانی در هم و بر هم گفت یعنی چه؟ اسخر گفت داوود ما باید یک جایگزین برای رویه حالمان داشته باشیم که اگر مجانین برای نابودیمان من برامدند راهکار و برنامه تغییر را از خود ما قبول کنند به دنبال برنامهی خارج از ما نگردند برای مثال محمد تصویر خوبی از خود در میان مجانین ساخته است از نظر من او را تشویق به بهتر ساختن خود بکن به او بگو که تمام صحبت هایی که میکند برخلاف سیاست موجود در دارالمجانین باشد او حال هم دارای پایگاه کوچک اجتماعی است اگر این تصویر به او داده شود میتواند در روزگار بحران به کمکمان بیاید میتواند داوود که اخمهایش در هم رفته بود در حالی که اسقر در کنارش نشسته بود با چشم ابرو به او فهماند که در برابرش بایستد و بعد بابی مهری گفت در حرفهایت فکر می کنم و شاید بتوان کارهایی کرد بعد طوری به اسخر نگاه کرد که انگار استه بیرون کردن او را داشت و اسخر به سرعت سری تکان داد و به سوی درب رفت تا خارج شود که داوود با صدایی گرفته رو به اسخر گفت آیا چیزی را فراموش نکرده ای؟ اسخر بازگشت به سوی داوود آمد و دستش را بوسید و با گرولونت هایی که می‌کرد از درب اتاق او خارج شد و داوود را با دریایی از خفکار تنها گذاشت تا برای آینده دارول مجانین تدابیر تازه‌ای به کار ببندد محتی از زندان خلاصی هفته بود و به میان مجانین بازگشته بود همه او را در شمایل قهرمانی می‌دیدند قهرمانی بزرگ و اسی جد چنگال ددمنشان به دلیری رهایی یافته است هر چندند جمعی هم بودند که به او سوه زن داشتند که چگونه به دار آویخته نشد چگونه اعترافی نکرد چگونه او را به زندان نگاه نداشتند و هزاری از این استدلالها، ها اما او آمده بود و با همه نگاه های به سمتش باز هم به جمع می میآمد و معزه می کرد باز هم از درد های حاکمه بر دارال مجانین میخواند در یکی از همان روزهای بعد از آزادی بود که در جمعی از مجانین شروع به سخنرانی کرد مردمان تا به میخواهید در این دیوانگی روزگار بگذرانید تا به میخواهید خود را اسیر دستان این دیوانگان بگذارید تا به میخواهید در برابر این بی ادالتی ها ساکت باشید آیا میدانید این انقلابیون طاهر در برابر شما چه پولهای کثیفی به جیب میزنند آیا می دانید در این روزگاری که شما برای نان شب تنگ آمده اید آنان از چه موقعیت لذت می‌برند؟ حسین به میان حرفش آمد و گفت اینها تأثیر مسین است تو کفر می‌گویی، تو دیوانه شده ای طلب اف کن و تسلاپان بخور شاید که حضرت از گناهت چشم کند محتی فریاد زد دیوانگان آنها شما را مشتی مجنون منگ فرض کرده اند و برای هزاری عباطیل می بافند تا به کی می خواهید خود را در این حماقت آلوده کنید تا به کی می خواهید خود را در این مرداب به چنگ غرق شدن بسپارید زینب به میان حرفش آمد و اینگونه گفت زشت رو هر کس به زشتی خودش چون خار, دید خار اینان هیچ بر خورشید عالم تاب نید مهدی دیوانه شده بود و مدام فریاد می زد.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 و او هم به جایی فرستاده شد که آرمان و بیشماران دیگری چون او به بند درآمده بودند. در انتهای بخش بیماران خطرناک، زندان تخصصی هیدر و شرکا. بعد از بردن او زینب با حالتی مغرورانه به میان مجانین رفت و این گونه گفت ما در این دنیا یکی خورشید از خود داشتیم. هر کسی با خار چشمان خودشان تار دید. لیک بر خورشید هیچی از صفیحان جای نیست او به عالم نور تابد نور او را شاه دید بعد از خواندن این شعر حسین تمثیلی از حضرت داوود را رونمایی کرد که بر تختی تکه زده بود و با دستانش به سر جماعتی از مجانین دست میکشید این تصویر نمایان شد و زینب اشک ریخت به فراخور از او جمی دیگر هم اشریختند و صدای گریه ها بلند و بلندتر شد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 و چه بسیار از آنان را به جوخه های دار سپردند برخی را در برابر عوام به خاک نشاندند تا به کارهای نکرده و کرده اعتراف کنند و این بازار به داغی بازار دستگیری ها در جریان بود و حال در این ندامتگاه ساخته به دست عوامل حیدر جمع بیشماری باز به بند در آمده بودند که در میان هم محتی به چشم می‌خورد و هم آرمان هر بار آرمان را به اتاق انفرادی می‌فرستادند. و او را در سکوت و تنهایی به حال خود رها می کردند تا اثر این تنهایی ها سر عقل بیاید و هم با جماعت انقلابیون شود اما در کنار این سلول انفرادی ساعت هایی هم برای استنتاق وجود داشت آرمان به صندلی بسته شده بود توان هیچ حرکتی نداشت دست و پاهای او را از پشت به صندلی بسته بودند تنها در آن حوالی دستگاهی بزرگ حواس او را به خود جلب می کرد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 این بار هم آرمان سکوت کرد. هیدر از جایش بلند شد و آرام به سمت صندلی او آمد. بعد دو گیره الکتریکی که از دستگاه هاویزام بود را برداشت و بر روی بدن آرمان گذاشت و دستگاه را روشن کرد. آرمان تکان می‌خورد. مدام در حالی که به صندلی بسته شده بود، تکان‌های سختی می‌خورد و نزدیک بود با صندلی نش زمین شود که حیدر دستگاه را خاموش کرد.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 مدام ضربات را تکرار می کرد و دیوانوار به تعدادشان می افزود. بعد از زدن ضربات پیاپی این بار با لحنی تندتر رو به آرمان گفت از سوی چه کسی اجیر شده این مادر به خطا آرمان زنگ صدای حیدر را به گوش شنید و چند باری آن را در دل مرور کرد تکرار کرد کلمه پررنگ در افکارش خطا بود خطا این خطا از چیست؟ خطای این فریادها چیست؟ چرا هیچ توانی در این فریادها ها نهفته نیست؟ مدام این سوال ها را به زند با درامیختن کلمه خطا آویخت که ناگاه چند ضربه دیگر به صورتش نشست هیدر فریاد میزد. از بیزه هایت دارت میزنم. بیناموس بی ناموس، بی همه چیز، مستین از کجا آوردی؟ چه کسی شما بی همه چیزها را یاری می‌رساند؟ او میگفت و یهگاه ضربه میزد و فریاد میکشید و باز آرمان به دریای ذهنش غرق میشد و دست و پا میزد. خطار حال با بی همه چیزان ضرب و تقسیم میکرد. ما بی همه چیز هستیم. آره هیچ نداریم. هیچ برای من باقی نگذاشتند. ما را بی همه چیز کردند. آرمان در افکارش غرق بود که هیدر کلافه او را با صندلی به زمین کفت. صورتش محکم به زمین خورده بود و غرق در خون شده بود. تعمه گس خون را در دهان میچشید و نمیتوانه صورتش را بالا بیاورد. تمام وزنش به روی صورتش مانده بود. پیدر چند باری ضربه به جان بر زمین مانده زد و بعد با فریاد گفت میدانم چه به روز بی همه چیزت بیاورم. میدانم چه راه کاری تو را سر عقل میاورد. آرمان در حالی که بر روی زمین مانده بود، هیدر از اتاق خارج شد. با آنکه در روی زمین مانده بود و جاری شدن خون را بر زمین میدید، باز هم در دل و خیال به روزگارانشان فکر می کرد. به مجانین، به انقلابیون، به دار مجانین، به همه گفته ها و شنیده ها، به بی همه چیز بودنشان، به خطای راهشان و در میان همین افکار خون بر زمین مانده اش را دید که به پیش می رود. راه را به جلو می برد و بر جای نمیماند. به او چش نخ و باز به زن همه را دوره کرد. بودنشان را، بی همه چیز بودنشان را و این خون بر زمین مانده را. چگونه مجانین حاضر به گذشتن از جانشان خواهند بود؟ چگونه خون به زمین ریخته را نگاه می و از ریختن خونشان بر زمین بر خود میبالند و خیشتن را می از این گذر افکار طولی نکشید که هیدر به همراه چندی وارد اتاق بازجویی شد. آرمان را دوباره نشاندند و این بار میزی برابرش گذاشتند. بوی گندی کل فضای اتاق بازجویی را فرا گرفته بود و هیدر در حالی که لبخنده کمرنگی گوشه لب داشت گفت میدانم تورا تو را چگونه بشکنم. به یکی از بهموران در کنارش دستور داد، تا ظرفی را در برابرشان به روی میز بگذارند و با گذاشتنش خودش از روی صندلی برخاست و به پشت آرمان رفت ظرف حاوی مطفوع بود بوی تهوی آن تمام فضای اتاق بازجویی را پر کرده بود آرمان حالت تحوی داشت و ناخداگاه روی ظرف بالا آورد حیدر با صدای آرام به گوشش خواند حال میتوانی از آنچه خود برون داده ای تناول کنی. بخور از آنچه حق توست. این را گفت و سر آرمان را به میان ظرف مدفوع کرد. آرمان در میان ظرف کسافات مانده بود و هیدر با چهره بشاش او را هر بار بیشتر می کرد. هر بار او را بیشتر فشار میداد و یهگاه از کسافات آستین و دستانش نجس میشدند. اما باز این کار را تکرار میکرد.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 دوستداش چشم باز کند و دنیا را ببیند اما باز هم زنگ صدای حیدر او را به خود فراخاند حیدر از صندلی برخواسته بود و آستین و دستانش را با لباس آرمان پاک می کرد و در حال پاک کردن این جمله ها را آرام تکرار می کرد این حق شما از زندگی است نجاست باید که به نجاست بازگردد آرمان حق را به دریای افکارش فراخاند و باز به خطا خواند باز برایش از بی همه چیز بودن گفت و باز همه را تکرار کرد خون ریختهش غرق در کسافات شدنش همه و همه را به چشم در برابر دیدگان گذراند و چشمها را گشود با نگاهی خیره به هیدر چشم دوخت هیدر با فریاد گفت زبان نفهم بی همه چیز بیناموس، میگویم مسین را از کجا آورده ای؟ آرمان در حالی که لبخندی به لب داشت آرام گفت آرمان هی در کلاف صدایش را نمیشنید با پرخاش فریاد زد چه میگویی مادر به خطا؟ آرمان تکرار کرد و این بار بلندتر گفت آرمان هی در دیوانه شده بود با حرس از جای برخاست و او را زیر مشت و لگت گرفت آنقدر به سر و صورتش گفت که نه تنها دستانش، بلکه ها و همه جانش به کسافت خوانده از جان او بدل شد و بعد از بیهوش کردن آرمان به کوتک بسیار در حالی که تنش غرق در کسافات بود از اتاق خارج شد و آرمان را در اتاقی که بوی تعفن می‌داد تنها گذاشت آرمان بعد از چندی از بیهوشی برخاست و خود را از خوابی طویل بیدار دید دید که چگونه آرمان به دلش زنده شده است دانست که خطای دنیایشان چیست؟ دانست که چرا بی همه چیز شده اند؟ دانست که چگونه از خون خواهند گذشت؟ چگونه از جان خود هم خواهند گذشت تا بیدار باشند؟ و همه را به نام خیش و در نامش خواند. هر بار بعد از برخواستن به میان زن فریاد آرمان سرداد جهکاه با صدای بلند نام خود را فرا می و تکرار می کرد آرمان هر چیز را به آرمانی بدل می کرد و آرمان برایش همه چیز دنیا شد بعد از آن روز باز هم حیدر به سراغش آمد باز هم او را به باد کتک گرفت آویزانش کرد هرچه دل تنگش خواست با او روا داشت و به پایان تمام کردهها فریاد آرمان از آرمان شنید و باز زیوانه شد باز به کسافات غرق ماند و باز دیوانوار او را کتک زد و باز به دنیایش جایی پیدا نکرد. هر بار کلافه از پیش به بالینش آمد و باز راهی به پیش نبرد و سراخر تمام این زد و خوردها آن شد که به تشخیص ناصر او را به بخش بیماران خطرناک منتقل گنند. زیرا او تمام مشاهیر را از زن آنان از دست داده بود و هیچ جز تکرار واژه آرمان برای گفتن نداشت. همین امر کافی بود تا ناصر او را مجاب کند که او عقل خود را از دست داده و هیچ توان ندارد و با مشورت از اسخر شکست شدن این موترزان بهترین کارها برای انقلاب و انقلابیان بود و قرار بران شد که بعد از چندی او را به میان مجانین بازگردانند تا همگان بدانند این موترزان چه موجودات سست انصری هستند و به انتهای رویارویی با نظام چه آید عوام خواهد شد. مهدی هم به زیر شکنجه ها رفت و این فضای حاکم بر دارالمجانین بود. هر کس که به دست نیروهای امنیتی میافتاد باید دورانی را به حس می گذاراند. باید شکنجه ها را تحمل می کرد و در انتها یا به اعتراف قانه می یا به اجبار آزادش میکردند و یا اعدام راه حل بود. اما مهدی هم بعد از چندی باز آزاد شد و به میان مجانین باز گشت.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 و صورت به این سو و آنسو می گرداند. با خود فکر می کرد تا چه حد با دنیای آنان فاصله گرفته است به چشمان تاهره چشم دوخت چه ساکت و آرام بود گه که چشمانش قرق عشق می و ناله و فقان سر میداد دیوانه شده بود نه حرفی برای گفتن داشت و نه گوشی برای شنیدن تنها نگاهی دنبال دار داشت که به فضایی در دو دست دوزد. و دنیای بیرون از این دارول مجانین را تصویر کند آرمان باز قدم برداشت باز بیشتر به پیش رفت و در برابرش سجاد را دید که بر روی صندلی چرخدار نشسته بود هیچ حرفی نمیزد او هم به درد تاهر مبتلا شده بود و آری هم درد آرمان بود او هم از همه دنیای پیرامون بریده بود هیچ برایش باقی نمانده بود و همه دنیا را از او رو بوده بودند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 از این رفتار و از این دنیای به جایگاهی می رسیدند که آرزویش را داشتند لباس های با ازمت الانگوان تلاین تاچ های نغره جواهرنشان، زیر دستان و اعتبار شاگرت های بیشمار طبقه اجتماعی خاص مورد توجه بودن احترام و هزاری عناوین بیشمار دیگر و حال مستانه در این روزگار به آرزوی به دست آوردن بیشتر از آن دست وها میزدند آرمان از همه گذشت و آرام زیر لب باز خاند. آرمان، آرمان دیگر همه به دیوانگی او هم قسم شده بودند همه میدانستند که او دیوانه شده است به سر او چه آورده و او را چه کردهاند و حال در چه حال و هوایی سیر می کند او آرام آرام زیر لب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 گویی آنان در انتظار چنین حرفایی بودند که دیوانه وار به پیش رفتند و همه جا را به هم زدند. سندلی ها را به زمین کوفتند، تخت ها را شکستند، آتش به پا کردند و فضای دارالمجانین را به شورش بدل کردند. در کمال ناباوری، زمان بسیاری گذشت تا نیروهای امنیتی وارد صحنه شوند و آنان تا جایی که توانستند، اوضاع را به خشم و دیوانگی نشان دهند. شعارشان هم یک چیز بود. دیوانگان برپا، پس آریجاه، شعار می دادند و آتش می کشیدند شعار می دادند و تختارا می شکستند شعار می دادند و نظم عمومی را برهم می زدند در طول تمام این اتفاقات آرمان آرام به گوشه ای نشسته بود و ورد همیشگیش را ادامه می داد هر بار همان را به زبان می آورد و همین باعث شد که در میان حضور امنیتی ها به او مزنون نشوند و از کنارش بگذرند اما مهدی و دیگر هوادارانش را دستگیر و به میدان هست بردند بعد از فرو این درگیری ها اسخر به ایوان امارت آمد و این گونه داد سخن داد مردمان اینان عوامل بیگانگانند اینان از دشمنند اینان آمده تا امنیت را از شما بگیرند این شروران برای نابودی امنیت شما به میدان آمده اند. بدانید و آگاه باشید که دشمن برای نابودی ما دندان تیز کرده است. آیا دارالمجانین المجانین سرخ را از یاد برده اید؟ آیا نمیدانید چه به روز آنان آمده است؟ از شما یاران میخواهم تا به سخنرانی برادر جواد این دلیر مرد انقلاب گوش دهید. که با خبرهای بسیار از سوی دارول مجانین سرخ به پیش ما آمده است. اسخرین ها را گفت و سکوی سخنرانی را برای جواد خالی کرد. جواد با چهره و جدی شروع به سخنراندن کرد. انسان ها بدانی که دشمن پشت دروازه های دارول مجانین به نشسته است. آنها میخواهند همان روزگاری را به ما ارزانی دهند که دارالمجانین سرخ با آن دست و پنجه نرم می کند. من که در این روزگاران معمور اجرایی در آن سوی دارالمجانینها ها هستم، میدانم که به روز آنان آمده است. من میدانم که آنان یکایک خیش خویش را می دارند. من میدانم که بلاهایی را به پشت سر می دهند. من میدانم که مردان دست جمعی به زنان تجاوز می کنند. من دیدم که هرکس قدرت بیشتری دارد دیگران را به بردگی و اصارت پرده است آیا از امنیت خود ناراضی هستید؟ آیا می به سرنوشت آنان مبتلا شوید؟ بدانید که دشمن برای ما همان روزگار را فراهم داشته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 امنیت و رعوفت هستیم بعد در حالی که تعداد بسیاری از مجانین حاضر در اختشاشات به خاک افتاده بودند و محتی هم جزشان بود و همه میدانستند که تا ساعتی دیگر اعدام خواهند شد محمد به نزد آنان رفت و دستی به سر و صورتشان کشید بعد با ادای احترامی به جایگاه والای حضرت داوود با خشو گفت حضرت ای والا گوهر جهان ما، امروز مخلصت از تو خاصه ای دارد، به وفای وجودت این حقیران را ببخش که تو مبدع مرحمت و بزرگواری هستی، اینان خشونت کردند و ما به آنان نیکی و آرامش هدیه می دهیم. در همین میان بود که حضرت داوود در حالی که شمایلش به خوبی دیده می به نزدیک ایوان آمد و با دست عرایض محمد را تصریح کرد محمد در حالی که به خاک افتاده بود فریاد زد یا داوود یا خدا همه جماعت به فراخور و پشتبانی از او همین شعار را فریاد زدند و اینگونه گونه همه تظاهرکنندگان آن روز آزاد شدند و به دارالمجانین بازگشتند خطاب دارالمجانین اثر نیما شاهسواری بخش نهم آرمان باز هم نام خود را هر بار تکرار کرد و در فضای سرد و تاریک دارالمجانین و به میان مجانین راه رفت هر بار با خود همان عناوین را دوره کرد همان عناوینی که او را به خود میخواند چه خطای مجانین از چیست؟ چرا اینان بی همه چیز شدند و چگونه میتوانند از جان و جهانشان بگذرند؟ باز با خود همه اناوین را دوره کرد. به دیدار ای رفت که برای استشمام هوای آزاد دیوار را کند و هزینه را پرداخت. به یاد اتش بی پایان جماعت مجانین افتاد که برای هوای آزاد برای دیدن ماه و خورشید و ستارگان چه آرزوها که به دل پروراندند آرمان هم به همان آرزوی جمعی دست برد و راه را پیش خاند او هم به پیش رفت تا نسیم را بر صورتش هست کند روزها را به نظاره نگهبانان می نشست که چگونه در تمام ساعات تمام آمد و شدها را زیر نظر گرفتند که مبادا کسی هوای آزاد را لمس نکند مبادا کسی چهره ماه را ببیند، با خود دوره کرد، به گذشته چشم دوخت، با خود خاند که در آن دیربازان چه خاطره روشنی از هوای آزاد دارد. چه چیز از خورشید و ماه به ذهنش باقی مانده است و دانست که هیچ جز همان روز آوردن با ماشین حمل بیماران و آن مسیر کوتاه تا ورودش به دار المجانین در برش نیست. او همه چیز از جهان گذشتهاش را از یاد برده بود نمیدانست پیش از آن که به دارالمجانین مجانین فرستاده شود چه کسی بوده است هیچ کس در دارول نبود که خاطره روشنی از گذشتهاش در ذهن داشته باشد در یکی از همین روزها بود که به بالین تاهره رفت و به کنار او نشست و آرام به گوشش خواند. از گذشته چیزی به یاد می آوری؟ تاهره بی حرکت در گوشه آرام افتاده بود و توان هیچ عمل نداشت اما آرمان می دانست که حرف او را شنیده است از این رو به پرسشش ادامه داد و دوباره آن را تکرار کرد و تاهره دوباره به سکوت پاسخش نگفت آرمان این بار رو به او گفت آنگاه که نسیم را می بلیدی چه احساسی داشتی؟ تاهره در حالی که گلویش خشک بود و توان ادا کردن کامل جمله ای را نداشت آرام گفت آزادی این بار ای نوع به دریای افکار آرمان وارد شده بود. این بار از چیزی شنید که دوست داشت بیشتر درباره اش بداند. پس همان شب خودش را به نزدیک یکی از دیوارهای بوتونی دارول مجانین رساند. جایی که در دیدرس ماموران امنیتی نبود. به پشت دیوار هوای تازه را احساس کرد. دست بر دیوار کشید و هوای میان ها را به درون سینه‌اش برد. با خود خواند احساس رهایی را اما برایش قابل درک نبود. این کار بازی چند روزه شده بود. هر شب در ساعتی معین به پشت دیوارهای بتونی میرفت و از پشت دیوارها هوا و فضای آزاد را ترسیم می کرد. از این هوا استشمام میکرد و در این بین و در میان همین روزها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 و زبان در دهان اسیر ماندهش به فعالیت درآمد. آرمان یک شب بیشتر از دیربازان خطر کرد و در امتداد یکی از پنجره ها که به دست انقلابیون با چوب و سیمان پوشانده شده بود، سوراخی حفر کرد. حرف کردن آن سوراخ بدون سر و صدا ساعتها زمان برد، اما سرآخرش سوراخی کوچک شد که ذره‌ای از نسیم بیرون را به درون می‌داد.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 که در میان نور آفتاب به حرکت درآمده‌اند به پیش میروند در میان همین افکار بود که صدایی او را به خدا آورد صدای پای یکی از مأمورین امنیتی بود به سرعت با هایی که بر زمین بود سوراخ را پوشاند و از آنجا دور شد به فردای همان روز دوباره به نزد مجانین رفت برایشان از زیبایی خورشید گفت از بی همتایی و منحصر به فرد بودنش از ماه تابانی که شب را روشن میکند از نسیم و باد و نوازش صورتها از بلعیدن هوای بیرون از تمام سیاه چالها برایشان از جهان دورترها گفت آنجا که زندگی جریان خواهد داشت طاهر حرفهایش را میشنید و اشک در چشمانش حلقه میزد بعد از پایان موزه ها باز هم از مزرات تسلاپام خواند و مجانین را بران داشت تا تسلاپام نخورند و به خود بیایند به آنها از حف کردن سراخها به سراسر دارالمجانین مجانین گفت تا باز هوای آزاد را استشمام کنند تا باز به خود بیدار شوند و به فردای همان روز بود که سجاد دیگر نبرسندلیه چرخدار که در گوشه ای توانست به سوراخ حف کردهش به صورت ماه چشم بدوزد و تمام رویاهای های را در میان تصویر ماه بسازد به او چشم بسپارد و ماه بر آسمان حلب سوختش را جلا بخشد و بسیار سوراخها به جان دارالمجانین مجانین جا گرفت تا نسیم کوچکی از جای جای دار وارد صحن تاریخ و سرد دارالمجانین مجانین شود و مجانین را دوباره به خود بیدار کند اتفاقی یک بار فضای دارالمجانین را به پیش برد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 تا ادامه‌ی همان بودن در کنار بیشماران در میان نور آفتاب را برایش شرح دهد. دوباره تصویر کند، دوباره آفتاب تند بر پیشوان چشمانش را رسم کند. دوباره تعداد بیشماری را که حرکت می می‌کردند را به تصویر بکشد که مشت‌های گره کرده در آسمان فریاد میزدند. فریادشان چه بود؟ آزادی، جانداران، جان نمی دانست اما تصویر آن روز و آن نور خورشید، آن صفحه انبوه در برابر چشمانش بود که هر بار از نور در برابرش سراغاز می و در تکرار نمی تمام اجزای تشکیل دهنده را به کنار هم بگذارد به نام آزادی یگان منجی جانداران آزادگان خیشتن را از یاد برده اید ما نیز چون شما دورتر از آن حسارها به بند در ایم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 این یگان منجی کجاست و چگونه میتوان آن را کسب کرد؟ چه کسی در حسر است و به یاد ما در آرزوی آزادی می کنند؟ باز هم دریایی از پرس شازه نشرا درگیر خود کرد و این گونه بود که در اولین فرصت به نزد مجانین از وجود این نام سخن راند و همه داستان را برای آنان خواند؟ همه به خطابه نامه گوش فرا دادند و خویشتن را در جامعه آزادگان جلا دادند. همه در آن اففال شادمانانه در آسمان قدم زدند، گهگاه پرواز کردند و در میان ماه و خورشید به رقص درآمدند. به آزادی سلام گفتند و این یگان منجی را به صحنه پرحصر زندگی هایشان فراخواندند. دو نامه دیگر بعد از آن نیز تکرار شد. یکی را سجاد پیدا کرد و دیگری را دختری به نام مریم متن نامه ها مثل همین نام کوتاه بود در هر دوی آن نامه ها صحبت از آزادگان و آزادی بود از یک رنگ بویند و در کنار هم مندنشان و دوباره همه را به خیش فرا می خوند را مجانین دست به دست گرداندند و با هم مرور کردند اما بعد از این واقعه ها دیگر اجناس به همین سادگی وارد دارال مجانی انقلابیون تمام بارها را مورد بازرسی قرار میدادند و هر نامه ای را از میان آن بیرون میکشیدند، چیزی که در دیرباز خبری از آن نبود. داستان اینگونه بود که یک روز حسن در میان بارها با نامه ای برخورد کرد و آن نامه را به اختیار داوود و هیدر و دیگر انقلابیون قرار داد. نامه اینگونه بود به نام آزادی یگان منجی جانداران آزادگان برخیزید و توحیان کنید که ما در انتظار شما هستیم برای نابودی این دیورویان از شما مدد می آزادگان امروز روز رهایی همه جانداران است نامه تفسیرهای فراوان داشت داود داشت که دیگر دارالمجانین ها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 نه با فریاد و شعار، نه توریج امنیت ها چیزی بفهمند که در خلفت و در جمع های دو نفره بینشان سخن رد و بدل میشد، و آنان را به خود فرا می خاند. در همین روزگاران بود که از سوی حکومتیان سیاست گروس نگاه داشتن مردمان اعمال شد. اوضاع اقتصادی در دار به شدت به خرابی میرفت. صحبت از آن بود که بودجه دارالمجانین برای مقابله با انقلابیون از بیرون دارالمجانین قطع شده است. کسی کالای دارالمجانین را بیرون از اینجا نمیخرد و اوضاع اقتصادی رو به وخامت است. برخی در دارالمجانین باور داشتند که تمام این اتفاقات به واسطه های جواد و دارودسته اش است. آنقدر در دیگر دارال ها فتنه بستند که جهان بیرون هم رونقی را از آنان دریغ کرده. برخی باور داشتند به واسطه قدرتگیری دارال مجانین است که بیرون از دارالمجانین مجانین به ترس افتاده و میخواهد با این ترفند در برابر پیشرفت دارالمجانین مجانین صدی علم کند. باورهای بسیاری پیرامون این اقتصاد شکست خورده مطرح می شد، اما بیشتر از تحلیل‌ها موضوع قابل اهمیت آن بود که زندگی مجانین از آنچه در پیش بود بدتر و بدتر شده بود. دیگر با مشکل غذا و آب سر و کله نمی توانستند با وعده غذایی شکم خود را سیر کنند. مجبور بودند تا ساعات بیشتری کار کنند تا شاید غذایی در انتهای این کارهای بسیار چسب کنند و شکم خود را سیر کنند.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 آنقدر همه را آشفته و دردمند ساختند که دیگر صدای فریاد نان مجانین هم به گوش نرسید در عوض تمام فریادها هیدری پیش آمد به همراهی جواد که با نیروهای تادندان مسلح مجانین را به گلوله بست برخی دیدند همانان که آتش میزدند، همانان که از تظاهرکنندگان کنندگان و مجانین بودند با گلوله دیگران را به رگبار بستند سوزنهای آتش زا آتش کردند ادهی را غرق خون بر زمین افکندند و باز به خون قائل ختم شد جنازه ها را بردار آویختند به میان صحن دارالمجانین مجانین آفیزان کردند تا مجانین بدانند پاسخ نان برای شانگولوله های است. دوباره همان داستان های دیر تکرار شد یک بار حسن به ایوان می آمد. بار دیگر محمد یک بار ناصر حرف میزد و بار دیگری از خر.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 همه از تدبیرها و بزرگی حضرت داوود سخم میگفتند گفتند که چگونه دارالمجانین را اداره کرده است. چگونه به این جماعت بیشمار امنیت ارسانی داده است و هر بار داستان تازهی گفته می شد. ترس در میان دارول هر روز بیشتر به پیش می رفت. بیشتر به مجانین می گفتند که چه آیندهی ای در پیش و برابر آنهاست. خشونت چگونه دامان یکایی که آنان را خواهد گرفت. هر بار چهره موترزان را خشونت طلبتر از دیر باز ترسیم می کردند. چهره های آشوب طلب که با شمشیر و تیغ به جان همگان خواهند افتاد. باجیره و مواجب از بیگانگان مزدوران آنان شده اند تا دارالمجانین مجانین را به بی و بی امنیتی دهند. دارالمجانین مجانین را به دارالمجانین مجانین سرخ بدل کنند و هرچه در این سالها انقلابیون بافده اند را از بین ببرند. مدام همه چیز در تکرار بود همه چیز در همان روال گذشته به پیش میرفت و هیچ اتفاق تازه ای رقم نمیخورد. فق بر مجانین فشار میآورد. تظاهرات کوچکی برای نان به پا می و به سرعت به خشونت کشیده میشد. پاسخ گلوله های سربی بود و تعدادی که بر زمین میافتادند. پس از آن داستانها ادامه می یافت دوباره سخنرانی ها از نوع آغاز می شد و خشونت نکوهیده می شود. ترس رکنه اصلی سخنرانی ها بود انظار عموم برای آیندهی دور از امنیت و آرامش هر بار همان داستانهای پیشترها اعترافات اجباری، اعدامها، زندانیها و دوباره سخنرانیها مرحمت حضرت داوود و بخششها و در کنار همه اینها دوباره اعدامها یکی دیگر از سیاست حکومتی آن بود تا به ناصر میدان بیشتری داده شود. او به همراهی بیشمارانی هر روز برای مجانین موعزه می کرد و سخنرانی های بیشماری برگزار می کرد. به محفل خصوصی مجانین میرفت به آنها در دیدارهای انفرادی سر میزد و در کنار خوراندن تسلاپام فراوان برایشان از امنیت موعزه می کرد. از با ترین چیزی که در جهان حاضر است، همین امنیت و آرامش تحفه از سوی حضرت داوود. موعزه ها یک به یک ادامه پیدا می کرد یاران کارازموده ناصر هم یکاییک ها جمله های او را تکرار می کردند و همان دوز مربوطه تسلاپام را به مجانین می خورندند و هر روز این دید و بازدید ها فزونی می آفت. هر بار در مجالس مختلف موعزه هایی از گوشه و کنار شنیده می شد. و هر بار برای مجانین از تسلاپام و ارزش والایش سخن رانده دوباره جهشت های انقلابی برپا می شد زینب شعر می خاند حسین نقاشی میکشید دیگر گروهها ها آمدند و نمای از امنیت برپا می کردند در این روزها نمایش دارالمجانین مجانین سرخ هم یکی از ابزار قدرتمند در میان بود تصویرها، اشعار و نمایش فراوان از روزگار بیامنیتی آنان، از دردها و رنج هایان بیپناهان مهمترین این تصویرگری‌ها، شعری سروده از زبان زینب بود که در شعر مسکور از زبان دختر بچه‌ای خطاب به داوود سراییده شده بود دختر با عجز و التماس از حضرت میخواست تا او را از چنگال دیو رویان رهایی بخشد این شعر خوانده شد و بسیاری اش ریختند و فردای آن روز با دستور مستقیم داوود جواد به همراه تعدادی به سوی سرخ روانه شدند و توانستند دختری را به دارالمجانین المجانین بیاورند که ادعا شد همان دختر مذکور است هرچند که دخترک هیچ از گذشتش به خاطر نداشت اما میگفتند به واسطه ی رنج های فراوان و تزریق داروهای غیر مجاز به این فراموشی دوچار شده است. بازار دارالمجانین مجانین داغ بود و هر روز اتفاق تازه ای در حال وقوع بود. یکی از آن اتفاقات را مهتی رقم زد. مهتی به میان جمع مجانین آمد و فریاد جنگ سرداد. او باور داشت که دیگر باید در برابر انقلابیون مسلحانه ایستادگی کرد.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 باید خود به مجانین حکومت کنیم. حوادارانش فریاد زدند. دیوانه به دیوانه همین شاه همین راه. سجاد گفت آیا تمام خواستت قبضه قدرت است؟ محتی گفت ما قدرت را قبضه می کنیم و هر که می خواهیم کس پاهیم کرد. اما نخست باید قدرت را قبضه کنیم. تاهره به میان حرفش آمد و گفت یعنی حال هیچ خواسته روشنی ندارید و تنها برای قدرت دست به اسلحه خواهید برد. مهدی با پرخاش گفت خائنان، ترسویان و ظالمان سرنوشی یکسان خواهند داشت. به فراخور او اوان و انصارش فریاد زدند خون به زمین ریزد از این مفت نفسخار. خار ظالم و مظلوم و همه خائن بردار شعار دادند و از آن فضا دور شدند. حال دارالمجانین مجانین بخشی داشت که به فکر جنگ مسلحانه بود و دیگرانی که در پی شکلیری باور و خواستها تلاش میکردند. آرمان، تاهره، سجاد دوباره به میان مجانین میرفتند. همه با هم سخن میگفتند. از آرزوهایشان حرف زدند. هربار تصویر زندگی آزاد را نقش دادند. هر بار به خلوت از ماه و خورشید و آسمان گفتند و هر بار تصور از زندگی کردن را شرح دادند هر بار یکی تصویر تازهی از آزادی داد آزادی این یگان منجی جانداران به تعریفهای بسیار میانشان رنگ و بو گرفت هر مجنون بر میخواست و برای دیگران از آزادی در ذهنش میگفت یکی تصویر کرد که تصورش از آزادی چشم دوختن به ما هست یکی تصور کرد که آزادی را در زندگی برابر با دیگران میبیند. یکی تصویرش از آزادی نبودن هیچ حضرت و بالایی بر جهان بود و اینان با هم حرف زدند هر بار به جمع کوچک و بزرگ در تنهایی و به جمع از آزادی گفتند بران تعریف گذاشتند آرزوها و خواسته ها را سرف کردند از معایب تسلاپام حرف زدند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 و این گونه بود که مجانین یکا یک را جان خطاب کردند این کلمه به مجانین هم باز میگشت و از آن خوش تر بود و خواستند این گونه هم دیگر را خطاب کنند حفره ها هر بار در گوشه بکنار دارال مجانین کند کنده شد و هر بار جانهای به بند آمده در دارال مجانین به پشت حفره ها آنچه را آزادی خواندند به نظاره نشستند به هوای آزاد را به درون سیرها بلعیدند فرای همه اینها آن نامه ها آن های یگانه منجی جانداران آزادی برایشان با ارزش و والا بود اما هرکس کس تفسیر خود را از این واژه هزار تو معنا داد جلید همه روزگارانشان سخن گفتن بود گوش کردن بود آنها نه به میدان آمدند نه فریاد زدند و خواستند به ابتدای راه تنها بگویند و بشنوند تنها با هم درمیان بگذارند تنها خواسته ها، آمال، آرزوها، آرمان و هدفها را با هم دوره کنند به ابتدای راه به ارزشی یکسان برسند و پس از آن به راهشگام بردارند این بود که هر روز و در جا جای دارالمجانین آزادگانی بودند که در کنار هم به سخن گفتن مشغول شدند لقب آزادگان را بسیار میپسندیدند و گهگاه خود را اینگونه خطاب میکردند دیگر کسی در تنهایی به افقی خیره نشده بود هرچه در فکر داشت را به زبان آورد و با دیگران مطرح کرد در این بین بسیاری از جانها به بند درآمدند ها شناسایی شد محفل های کوچک آنان را دیگرانی لو دادند و اینان به دست مأموران سپرده شدند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 همه در این گفتن شریک بودند و همه به کنار هم از آن چه خواستند گفتند و با هم یکی شدند. و این گفت و شنیدن ها با همه مشقات با همه زندان ها، شکنجه ها، بخش بیماران خطرناک ادامه داشت و هر روز باریشه ای استوارتر به پیش می رفت. فرای این بیشتر تفکرات انقلابیون به گروه خشونت طلب بود، و بیشتر اتفاقات را از جانب آنها میدیدند و کمتر به سوی اینان حواس معطوف کردند گروه مهدی به همراهی مجانین دل سپرده به او هر روز قدرت بیشتری می‌گرفت. آنها می‌توانستند هر روز ضربه تازه‌ای به انقلابیون بزنند و ریشه قدرت آنها را کمتر و کمتر کنند. از این رو بود که ترس به دل‌های انقلابیون افتاد. هر روز با هم نشست برگزار می‌کردند از خطرها می‌گفتند راه را با هم بررسی می تا به جهنبندی واحدی برسند و در برابر این نیروی تازه وارد سفارایی کنند. محتی به همراهی مجانین دنبال رویش هر روز در پی راهکاری بود تا اسلاح خانه ها را به تسخیر خود درآورد و به نیروی تازه نفسش را مسلح به آن پول های بردوالا، باتون، شکل الکتریکی و حتی سلاح گرم کند. آنها ساعت‌ها برنامه‌ریزی می‌کردند، راه حل‌ها را یک به یک بررسی می‌کردند تا بتوانند به این کلید موفقیت راه پیدا کنند. در این راه، جانبازی های بسیار هم کردند در نقشه‌هایی که کشیدند، چندی دیوانه‌ی روهای امنیتی روبرو شدند که باعث کشته شدنشان شد و راهی به پیش نبرد.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 مثلا همین مهدی، این سرکرده شورشیان چرا آزادانه در حال جولان دادن است؟ باید او را به تیغ تی سپورت و در ملعه عام اعدامش کرد. از به میان حرفش آمد و گفت اما اخوی اگر او را بکشی با جماعت شورشی حوادارش چه خواهی کرد؟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 و از سرخی چشمانش می این موضوع را فهمید از بلافاصله فاصله رو به حضرت گفت حضرت داوود آیا می توانم با شما از خصوصی صحبت کنم؟ حضرت در حالی که بی تفاوت تر از همیشه بود با سر به نشانه تأیید پاسخ گفت در همین حال یک به یک انقلابیون به پیش پای حضرت داوود افتادند و بر دستانش زدند و به سرعت از اتاق خارج شدند در همین بین بود که اصخر رو به جواد به آرامی گفت حال زمان اجرا کردن همان راه کار ماست. تو را به خدا، تو را به روح حضرت والا قسمت میدهم که اشتباه نکن. جواد با چهره ای که مملو از اعتماد بود به اشارت سر هر پای اسخر را تعیید کرد و مصمم از اتاق خارج شد. حال اصخر به همراه داوود در اتاق بود، و با او شروع به سخن گفتن کرد جواد بلافاصله بعد از بیرون رفتن از اتاق به هیدر گفت برادر دوست دارم در این راه همراحت باشم آیا مرا در رکاب خود میپذیری؟ هیدر در حالی که ابروان و لبانش به هم کشیده شده بود گفت چه شده است که ما را به عنوان راه برپذیرفتهی؟ شما خود رهبر هستی؟ شما را چه به در رکاب دیگران بودن؟ جواد با نیشخند و در حالی که به پشت هیدر میزد گفت ما همیشه در رکاب شما بوده ایم این بار هم رهبری شما سعادتی برای ماست در برنامه چیست میخواهی چه کنی در گفت آتشت خیلی تند است اول برادری خود را ثابت کن بعد تقاضای ارث و میراث بکن اخوی جواد باز هم با چهره‌ای بشاش رو به حیدر گفت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 داوود گفت مسبب به این دیوانگی ها تو هستی حال نمیدانم باز از چه روی این گونه به خلوت من آمده ای و ادعا میکنی؟ کنی از خرسکوت کرده بود و گویی چیزی برای گفتن نداشت و داوود ادامه میداد. من به افکار تو بال پر دادم و حال این گونه در حال دروی محصولی هستم که تو کاشته ای کجا این دیوانگان تا این حد بی پروا بودند؟ چه زمانی اینگونه به سه می و دست به خشونت می اینها همه از راه کارهای توست حال به دنبال چه می گردی؟ می چه چیز به تو هدیه دهم؟ جواد رو به هیدر گفت به نظرت پشتن محتی آشوب را بیشتر نخواهد کرد؟ آیا فکر نمی حداقل اگر این کار را در خفا بکنیم بیشتر از آن بهره می بریم؟ هیدر گفت هرگز ما باید او را در ملعه عام به اصارت و هلاکت برسانیم تا دیگران حساب کار خود را بکنند همان راهی که من از ابتدا به دنبالش بودم در حالی که تو و دوستانت همواره به دنبال مماشات بودید و این سرآخر این مماشات هست جواد گفت اما اخوی به این فکر کن که این رفتار تو جماعت را جریح تر می کند و نمی توانیم در برابر همه بیستیم اگر در این دارال مجانین دیگر دیوانه ای نباشد به چه کسی حکومت خواهیم کرد؟ حیدر با تندی رو به او گفت بر مردگان، بر در بر مردگان حکومت کنیم بهتر از این است که بر گرده ما باشند و به ما حکومت کنند آنانی که در جستجوگ مرگ هستند را دریاب و به آنان مرگ دار که در این آرزو سوزند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 و هر بار خود به آسمان در آمد و پرواز کرد و به آخر فرود آمد بر سینه های سینه چاکان که هدیه دادند جانهایشان را که در آرزوی مرگ می سوختند. و باز آرام به پیش رفت و هیچ توان خاموش کردن و ایستادنش نداشت در چشم برهم زدنی به فاصله چندین متر در دو اتاق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 همه را به زندان‌های از پیش تعیین شده فرستاد تا برایشان در دور زمانی سخنرانی کند. بعد به دستان مأمورینش سلاح جرم داد و همه را در صحن مجانین قطار کرد. بعد از آن بود که خیشتن به صحن رسید و با فریاد همه را به پیش خواند. همه پیش آمدند. انقلابیون در طبقه فوقانی و مجانین در صحن زیرین.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 از اتاق حضرت داوود، او آمد و آرام بر ایوان در کنار جواد ایستاد و جواد رو به عموم اینگونه خطابه را آغاز کرد. همراهان، هم همرزمان و انقلابیون، آگاه باشید و بدانید که امشب یتیم شده ایم. همه چیزمان را از دست داده ای. ما دیگر بیار و همراه مانده در حالی که اشک چشمانش جاری میشد گفت حضرت را کشتند همه بوخت زده به هم نگاه میکردند کردند که جواد چشمان گریانش را پاک کرد و مسممتر ادامه داد شورشیان و خشونت طلبان به نیروهای امنیتی دارالمجانی نفوذ کردند و در نخشه ای از پیش تعیین شده حیدر و حضرت والای بزرگ مرتبت را با دشنه از پای درآوردند. جماعتی متشکل از حسین، زینب و دیگر مجانین معدودی اشک می‌ریختند و جواد ادامه داد. ما تمام نیروی امنیتی را به هست درآورده تا خاطیان را شناسایی کنیم و این نیرو را تصفیه کنیم. انتقام خون این دو انقلابی پاک را خواهیم گرفت.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 ما پدرخاندهی به بزرگی اسخرشاه داریم که ما را در این ناکامی همراهی خواهد کرد او یگان منجی زندگی ما خواهد بود بعد از گفتن این خطابه بود که رو به جماعت گفت اسخرشاه، اسخرشاه، راه خدا آن والا او گفت و بعد از چندی همه شعار را تکرار کردند و اسخر در میان ایوان آرام گفت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 اما هر روز بر بزرگی حضرت داوود و حیدر افسوده شد. هر بار داستانهای های در دربارهشان دهان به دهان چرخید. هر کس شعر تازهی پیرامونشان می سرود. از دلاوری های حیدر می که با همان چاقو بیشمارانی را به هلاکت رسانده است. تعداد خاینین بسیار بوده و حیدر توانسته یک تنه بیش از 20 نفر از آنان را بکشد.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 و این گونه با مرگ آنان خود را آرام می کردند برخی در زند باور داشتند که کسانی که آنان را کشتند قهرمانان بزرگ این دارول هستند نیروهای امنیتی بعد از چندی کشته شدند بسیاری از آنان به رگبار بسته شدند برخی را اعدام کردند و به سردر دارول آویختند تا درس عبرت دیگران شود.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 دارالمجانین با تمام اتفاقات تازه هم در همان شکل و ربیه سابق خود در حال پیش رفتن بود. آرمان و دیگرانی که خود را آزادگان و گاه جان خطاب میکردند مدام در حال سخن گفتن با هم بودند و در پی آن سخن و گفتنها حال به آرمانی واحد رسیده بودند و آن آزادی فرای این دیوارها و حس در این زندان بزرگ بود. آنها تنها آرمان خود را رهایی از چنگال این زندان پنداشته و می‌خواستند به جایی راه یابند که زندگی در آن است. در کنار آنها جماعت محتی وجود داشت که تنها به فکر قدرت گیری بود. می‌خواستند حکومت را تغییر دهند، نیروهای در قدرت را عوض کنند و ساختار زندگی‌ها را تغییر دهند.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 و آشوب و جنجال پیش آمده را خاتمه دهد هر بار که اسقر به ایوان می آمد تا شروع به خطابه کند جواد متوجه میشد شد که از بسیاری مورد لن و دشنام قرار میگیرد. گیرد کسان بسیار کمی حاضر بودند تا شعارهایی به نفع او دهند و بیشتر صحبتهایش برای کسی مورد ارزش نبود اسخر در نشستهای خصوصی با جواد راه کارهایی می داد که بیشتر رنگ و بوی خشونت داشت تقریبا راهکارهایی شبیه به همان راه حل حیدر اما جواد نمیخواست که با این تناب خود را به اماق چاه بیاندازد. او میخواست این سرنی را در کنار هم و متشکل داشته باشد هر بار فکر میکرد و میفهمید که آرمان و دار و دستش خطر جدی برای آنها ندارند حسین و زینب را هم میشود به سادگی آرام کرد و به هر جریان رساند در سانی، آنان دلبستگی فراوانی به محمد دارند، همان راهکار پیشترهای اسخرشاه، اما نیروی مورد بحث را حقا مهدی و دارو دسته اش میدانست که امکان بلوا و شورش را داشتند و میتوانستند در چشم برهم زدنی همه چیز را تغییر دهند. از این رو بود که در این مدت بیشتر به محمد میگفت تا به جمع مجانی برود و برایشان صحبت کند، به به سوی مهدی و دار و دستش محمد در این رفت و آمدها فهمید که آنان به دنبال قدرتند و میخواهند حرفهایشان به کرسی بنشیند و تنها چیزی که آنان را آرام می کند همین دیده شدن و مطرح شدن است محمد به جواد پیشنهاد کرد که با سرکرده آنان صحبت کند و از او خاصه هایش را بپرسد این گونه شد و جواد باز هم به اندوخته های شد محمد هر روز به میان مجانی میرفت و با آنان سخن میگفت به درد و دلهایشان گوش میداد برایشان آرزوهای زیبا و آیندهای روشن را تصویر میکرد و همواره به جمعشان بود زینب و حسین هر روز بیشتر از گذشته بزرگی او را می و بیشتر شعرها و تمثیلها بیانگر آن بود که با محمد میتوان به دوران صدر انقلاب دست یافت در کنار اینها با وجود محمد صحبت های بسیار میان مهدی و حکومتیان رد و بدل شد آنان هم به شروطی مصالحه کردند و آرام نشستند همه چیز آرام شده بود و همه فکر می که آرامش کامل به دارول مجانین بازگشته است و بعد از گذر روزهای بسیار بالاخر صلح و امنیت در دارول حاکم شده است به همین بزرگ داشت بود که اسقر به ایوان آمد تا با مجانین صحبت کند در چند گامی او جوادی ایستاده بود که مسبب آرامش این روزهای دارالمجانین بود اسخر رو به مجانین این آغاز کرد ما امروز در کمال امنیت زیست میکنیم و باید که این امنیت را پاس بداریم حضرت والا می فرمودند تنها راه پیشرفت آدمیان زندگی به امنیت است حضرت همه چیز جهان را می دانستند. ایشان برای زندگی ما در تمام ایام راهکار کار دادند و ما از هر چیز دیگری بی نیازیم. باید بدانیم که امنیت به سختی به دست آمده و باید مدافع آن باشیم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 به کنار داوود و هیدر آرام بخواب که وجود شمایان هیچ به کار نمیآید. نمی آید. جواد بعد از گفتن این جملات به گوش اسخر برخاست و در برابر مجانین سخنرانی کرد. همراهان و هم همرزمان بدانید و آگاه باشید که امشب یکی از دشمنان بزرگ در لباس دوست را از میانمان برداشتیم.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 و امنیت خواهیم رساند جواد گفت و جماعت بیشماری از مجانین فریاد زدند پیش به سوی دیدار رهبرمان ما نگهدار محمد را به روی دستان کشیدند و تا ایوان بالا بردند و محمد به کنار جواد آرام شروع به نطخ کرد پیروزی از آن ماست او این را گفت و جماعت دیوان وار فریاد یا محمد یا خدا سردادند و همه جای دارالمجانین از شور پر شد آرمان و همراهان به نزدیک درب ایستاده و بر آن میکوفتند میخواستند تا دریچهای برای رفتن آنان باز شود میخواستند تا از این دیار بروند و دیگر اینان را به چشم نبینند میخواستند از دنیای پر از خون و جنایت اینان دور شوند. شاید دیگر توان بودن با آنان نبود و شاید باید که دوباره می‌خندند و به جمعهایشان میگفتند تا آنان را هم از این خواب برخیزانند و به کنار آنان درآیند. جواد با اشارت سر به گروه مهدی فهماند که باید مجانین را به اتاقها باز فرستند.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 در حالی که حسین و زینب دورش را گرفته بودند و سپری در برابر دیگران برایش ساخته بودند گفت همراهان باید تغییرات بنیادین دارالمجانین را فرا بگیرد و از امروز روزگار پیروزی ما آغاز خواهد شد. ما این دارلمجانین را به محل ادالت و امنیت بدل خواهیم کرد. او این را گفت و زینب این گونه خواند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 و در کسری ارسانیه بر فکر والای خود سهه گذاشت که او این انقلاب و این حکومت را با این از خودگذشتگی نجات داده است. در میان آزادگان بحث در گرفت. همه به اتفاق باور داشتند که دیگر نمیتوان در این دارالمجانین زندگی گذراند. و این صحنه به خون و خشونت غرق شده هیچ راهی برای برون رفت از آن نیست.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 و را از این مرداب برهانیم؟ تاهره در پاسخ به او گفت آزادی ما با اینان چه بسیار متفاوت است آنان به دنیایی که ساختند آزادند و ما آزادی را به دو دستی به دست خواهیم آورد آرمان گفت آری درست راه همین است اما باید باز هم ندای آزادگی را به میان آنان بدمیم و با آنان در میان بگذاریم شاید تعدادی از آنان که مسک شده به راه پیوستند. اما اگر آزادی را در همین روزگار دیدند آن دیگر جهان آنان است و هر کرده ما به نقض آزادی خواهد انجامید این گفت و شنودها ادامه پیدا کرد تا همه جانها باور پیدا کردند که بعد از درمیان گذاشتن بادیگران باید که از این دارول مجانی بروند و زندگی را در دور دستی بجویند و برای این کار باید همه در کنار هم و متحد باشند از فردای آن روز به نزد همه رفتند و با همگان از آزادی و آرمان گفتند اندکی از هم آنان که در گروه مهدی بودند و حال نیروی امنیتی خوانده می شدند، به آنان پیوستند برخی دیگر از آنان که آرزوی رسیدن به جایگاه والای قدسی داشتند و جا به پای حسین و زینب می زدند به آنان پیوستند برخی که بی تفاوت بودند هم با آنان همدل و همراه شدند آنقدر به میان همه رفتند تا هر که بود را بیدار کنند و هر که باور به آزادی فرای این دنیای دارالمجانین المجانین داشت را بیدار کردند تصمیم بران شد تا به روزی معین همه با هم و در کنار هم آن کنند که به دل ایمان و آرمان خانده اند روز معود فرا رسید همه در کنار هم همه آزادگان و جانها به صحن آمدند و با همراهی هم به سوی دروازه های دارول راه بردند. آنها فریاد می زدند. زندگی دورتر از این قفص و به آزادی زنده است. دروازه ها را تکان میدادند از این هیاهوب و شور انقلابیون به ایوان آمدند و محمد این گونه نطق فرمود. به دنبال چه آمده اید؟ آیا آزادی می خواهید؟ آیا می از هوای آزاد استشمام کنید؟ من تازه به کار نشستم بدانید که همه آزادی را برایتان مهیا خواهم کرد میخوا که ساعات هوای آزاد برایتان دایر شود میخواهم که جعبه جادویی برایتان نصب کنند میخواهم که نمایش بسازید شعر بگویید تصویر بکشید آن کاری را بکنید که به آن علاقه دارید هر چه در سر پروان اید از آن شماست بعد از گفتن اینها بود که زینب خواند، آزاد رها از دل یزدان به برون داد یزدان به زمین است تو همه راه نشان داد هر چیز به دل داری و هر فکر در آن راد از آن تو که شاه به تو تحفه گران داد حسین فریاد یا خدا یا خدا سرداد و همه در برابر محمد به خاک افتادند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 از وجود خودشان سپری بزرگ و عظیم ساختند تا در برابر زشتی ها بیستند و همگان را در امان دارند محکمتر به دروازه ها تا برون روند و هر آنچه آزادی خانده را به دست گیرند محمد با ای در همه آشفته از کنار یاران به پیش آمد و بر ایوان فریاد زد شما بدکاران لایق هیچ نیستید و ناسپاسان دست مددگر را میشکنید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 آن را دروغین خواند آن را قلف شده دانست و هزاری انج آن زد. این بار ماه بود که سخن می گفت. خرشید جهره برون داده بود. هوای آزاد و نسیم بود که صورتها را نوازش می داد. این بار باران به پیش آمده بود تا همه را بشوید و تطهیر کند. هیچ نبود جز آزادی که سخن می و همه را به خود فرا می خاند. یکاییک به نجوای آزادگی پاسخ گفتند، نیروهای امنیتی هم تو را گشودند و از دروازه های بیرون رفتند. بعد از آنکه که هر که در دارالمجانین بود، مجنون بود و دیوانه می به بیرون قطار شد و هیچ کس نماند جز همانان که در دور دستی به بالای ایوان و طبقه فوقانی نشسته بودند.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 چندی نگذشته بود که همه طبقه فوقانی همه و همه آنجا را خالی کردند به دور دستها شتافتند و هیچ کس به میان دارال مجانی نبود محمد دیوانه شده بود به ایوان آمد جامه و دیوارا برکند فریاد زد من خدای شما دیوانگانم مرا بپرستید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 دارول مجانین سرد و تاریک در میان سکوت بر جایی بود. و جانها آزادگان، امنیتی های مجانین و حتی دلباختگان همه از آنجا دور شدند و خواستند در دور دستری از طعم آزادی آنچه خود تفسیر کرده اند و به آن باور دارند بچشند. به فردای همان روز بود که همه روزنامه ها در میان جبه جادو و هر خبرنگار این را بلند و در ازران قاند. آزادگان به هست در آمده در دارالمجانین که در این سالیان بعد از کودتا به هست در آمده و کسی از سر خبری نداشت بلاخر با آنکه هیچ از گذشته های خیش نمی از دار گریختند و خیشتن را به آزادی رساندند. در همین بین بود که محمد به نامه های بی رسید همه را خواند، همه را که داوود در این مدت از همه دور نگاه داشت تمام آن نوشته ها که بران نقش بسته بود به نام آزادی یگان منجی جانداران آزادگان خود را دریابید و به پا خیزید که اینان شما را به بند کشیده تا از ذات خیش دور شوی، اما ما که می دانیم این احساس رهایی به جان شما مانده است به وجودتان سرکش است آزادگان ما چشم به راهتان مانده ایم و آرزوی دوباره فریاد زدن است دوباره در حالی که نور خورشید به پیشوان من میتابد به خیابان بیاییم و فریاد آزادی سرده ایم حالان به فرجامش در دارالمجانینی به هست در گذشتهمان را بدرند و هیچ از خود ندانیم اما باز هم خواهیم خاند و تکرار خواهیم کرد که آزادی از ماست و ما ازانیم محمد نامه ها را یک به یک میخاند و بیشتر از گذشتگان میفهمید به دل داوود را میستود که جای بر پای خدا گذاشت و دانست هیچ برای فردیت انسان والاتر از خدا بودن نیست